ای محبان. بسم الله الرحمن الرحیم از سلام عدد افتران دارم خدمت شما نزیزان و بزرگاران از اینکه در خدمت شما هستی خدمت شما شاکرم وقتی که قرار یه سجد جلساتی ما خدمت شما از آن ارائه بدیم با عنوان بخص نمال است و به صورت تخصصی و ویژه با توجه به ضیات این دانشگاه بررسی خواهد شد. خدمسی شما عسب می کنم متاسفانه این معموله اسباب و او در کششیت درش نشده. ما حبیتا دهها سال از غبیبات این حوزه عقب در حالی که گذشته ایما این نبوده نبه و مباحث مبوب نشان ها نمادها چه از مغازه ایرانی بودنمون بچه از نظر مسلمان بودنمون بسیار امیغه ما مردم بسیار نمادگیرهایی هستیم ما مردم چنایه پردازی هستیم این کلمات این لغاستی که استفاده میکنیم، کنیم عموما است از یک جریان فکری گاهاً می تونیم یک داستانش این بیشه مفصل و طولی کلمه انتقال بدیم که کمتر جایی در دنیا همچین بیژهگی رو داره به لحاظ تمدم شناسی و مردم شناسی و جامعه شناسی مردمی که تاریخ سطورت و طولانی دارن این طور هستن شما دقیقا میبینید این مسئله در ایران، میس، یونان، چین، هند بحث نمادها خیلی خیلی خدمت شما عرض کنم عمیقه و جدیه و بلیه نقاط دنیا هرچه دارن نگیم حالا هرچه دارم خیلی ممکم صحبت کنیم اما واقعا در مقابل این مواردی که خدمت شما عرض کردم دیده نمیشه اصلا بس ما هم ریشه این مطرق خواهیم به دور از تنصوبات دینی و نجادی و این بس کامل از جوهشیست فرزا ممکنه در طول بحث به کسی بر بخوره مشیر از اوست از ما نیست اجازه هست شما را از کنم نکته این که فضایی که باعث شد ما این بحث رو بنا به درخواست این گروه عزیز که ما دعوت کردن مطرح کنیم این بود که یه خورده فضای کشور متأسفانه غبارآلودتون زمینه فضایی که شما میبینید که در و زیبارو دارن گیر بودن هر کی ما میره چیزی شروع میکنه به شمردن و خیلی فضایی بدی و تا حدودی هم این فضا آمدانه به وجود بعد از مطرح کردن یه سری مباحث و مسائل اینا بی‌انصافا اومدن شروع کردن به ام به در دیوار لوددن که مبحث لوس بشه که من از همون ابتدا هم بارها در ابلاغ شخصی خودم و چه در سایت جنبش بارها بیانیه دادم که واقعاً اینطور نیست ها وقتی پوسشو پاسو صورت می‌گرفت جدی در مقابل این انحراف بی‌ ایستادم اما دستهایم واقعا در کار کلینو به این سمت بذاره به عمد دارن گیر میدن به این ورا و به قول نمادشناس ایتالیایی اکو دارن به سمت انحراف در نمادشناسی میبرن که تا قدودی عمدیست تو بیشترش و بخشی هم عادیست و طبیعی است. حالا اونها رو بحث نمیدن ببینید عزیزان بحث معبول به نماد رو ما همیشه باهاش درگیری داریم همیشه یعنی سر تا سر زندگی ما رو گرفته امکان ندره ما جایی بریم که از نمادها و نشانه ها خبری نباشه. از چراغ راهنمای رانندگی رسیده تا تابلوهایی که وجود داره توی خیابون‌ها و این مختص به کشور ما نیست به ما هم نیست در کل دنیاست تا نحوه انتقال دادن مفاهیمی که غیر صوتی است غیر تا مفاهیمی که آوایی است یعنی ما مفاهیم آوایی رو انتقال میدیم به عنوان برخی از نمادها نشانه‌ها نمی‌گه نمی‌تونه کسی اعلام بکنه و ادعا بکنه که ما بدون نمازها می‌تونه کارمون رو پیش ببریم. واقعا نشدنی نیست. و کارورده های فراوان این علم خصوص در موارد مربوط به رشته شما عزیزان و بزرگاران اهمیت همونو دوشندان میکنه بحث اینجا بحث تخصیص شاید برای افرادی که جنوزه ها نداشته باشند یه خورده خسته کننده هم بشه و ما این جامعه هدف برای ما مهم نبوده اون افرادی که براشون این مسائل جا نیفتاده یا واقعیت اصلاحات آشنایی ندارن اما بنده حضر مقدور به زبانی سخن میگم که همه فهم باشه و نکته میست بیرونیت بتونه استفاده کنه اگر دانشجوی معماری بتونه استفاده کنه اگر دانشوی, دانشوی گرافیک فرش بافی نمیدونم چی چی چی هر چ شکاست قابل استفاده که هست برای این دوستان بیرون هم اگر چی میدونم پلیس ما اگر بخواد یه نمادی حساس بشه بدون تاریخشه این چیه؟ نحوه این چیه؟, چیه؟ آیا میتونین نماد نماد مشترک باشه؟ یا خیر؟ ایش نماد است مال یک گروه یا یک فرقه خاصیه؟ کارورت های فراغانی انشالله خواهد داشت. ببینید از از این نماد و آنچه که به عنوان استنبول ما میشناسیم و غلط میگیم از ریشه یونانی ساملیان گرفته شده که بعدها به زبان لاتین رفت شد سمبل بعد این فرانسه بعد انگلیسی اون چیزی که ما به عنوان سنبول در ایران استفاده میکنیم و در زبان فارسی از زبان فرانسوی وارد شده در زبان یونانی اسم همین بحث سمبل سمبیلیان به معنی جفت کردن و جور کردن بود چیزی که همدیگه هم دیگه بود به هم پیوستن رو هم انداختن مبناش رو هم به لحاظ تاریخی تاریخدانان میگن که قدیم‌ها یک ماجرای خیلی جالبیه توی این مثلا یک ای رو شما اینجا امانت میدادیم توی جنسی داشتیم یه رسیدی باید به شما بدن دیگه درسته یا به نمیستن کوزه شماره فلان خب از خود شماره یه دونه نماده برای انتقال مفت یه نشونه اما هنوز به این مطلب نرسیده بودن اومدن چی کار کردن و میامدن می بقل لبه یک کوزه رو میشکستن چی کسر میدادن به شما میگفتن برو شما که قوزه میزیش رو لای کوزه اگه جور در نیومد یالا به خدمت شما اگه جور در نمیومد، مسئلاقه به شما نمیدادم این سمبول یا بس سامبیلین که در یونانی جا افتاده از همین بحث گرفته شده یعنی جفت و جوک کردن الان هم یه جاسویچی هستش که خدمت شما اصلا بله بیان هم فندم الحمدلله متوجهن چه از میکنه که جور با هم دیگه مثلا یه افست فاصله بعد میزنه می کنار هم دیگه قشنگ خدمت عرض ارز بکنم اما در فارسی ما معادله برای نماد کلمات بسیار بسیار زیادی داریم و این در پیچیدگی این قوم برمیخیزه این مردم چون در اروپا نگاه بکنید پیچیده ترین رفتار رو مردم ایتالیا دارم برای چی به خاطر اینکه خیلی شبیه ما ایتالیا خیلی شبیه ما این واقعا برگرده به همین بودنشون. یع یعنی انسان‌هایی که تمدن فرهنگ زیاد بشت تش و تجدوعی تاریخی دارن اینا یاد می‌گیرن، آموزش می که خیلی از مفاانی رو بتونن کنسس و فیتی چپسوری بر انتقال بدن. یکی از آشنایان و فار از کشور زندگی میکنه میگه که از اینا بر من یه جوک تعریف کرد. بعد اونی خیلی بیممم حالم برخور می منم مثل یه جک تعریف کردم تازه جوک که او بدون است بعد تازه اون نمیشناسه کیه همه چی جو میگن سی درصدش خود مفروش هفت درصدشون اون نروه عده کردنشه بیبونم اون هفته درصد از دست دید میبونم این سی درصد من جوکو برای این تعریف کرده اینقدر خندید من نگرا نهی شدم کپتایم بلای سر بچه نهید بلای سر بباریش دکتر یک چیز رو دو برنش این بچه فاله تو ببینید این هناز بودن که نایه پرداز بودن ما رو شده به خاطرم کلمات ل... خیلی متفاقی داریم مثل دال برای سیمبول ما دال، نمودگار، نمون، رمز، نمود در عرف علمی کود، سیمبل سیمبل رو برداشیم سیمبل خدمت رو مرز کنم در کلمات ادبی مسل، مثل، مثال، نمودگار، مذهر، جلو و غیره رو داریم که ما بین اینها چی داریم؟ تفاوت آئلیم یعنی شما اگر میبشین پا حرفی عارف میخونم معلوم عالم مصرلی که نمیدونم فرد بطره از شما از کنم فلا فیلسوف گفته این بحث است. مثال چیز دیگری جلوه چیز دیگری باز نمود چیز دیگری است. در حالی که واقعا ما تفسیر کردن این حال من الان به شخص خودم آجد یعنی این تخصصی و ریز میشه. برای اولین بار یک دانشمند اروپایی به اسم ساندرز این رو با جورج ساندرزی که تارش فوتوات مغرب رو نوشته اشتباه نگیرید سوکوچی این شویدم بعد چارلز ساندرز فیلسوف عملگر عملگیراست این آدم اومد مقبوله نماز رو در ست شکل پیاده کرد اول بحث آیکون رو برش گذاشت که ما معادل فارسی شمایل رو استفاده میکنیم بعد بحث نمایل رو استفاده کرد معادل انگلیسیش میشه این و از بحث سنبول رو ممان خود نماد استفاده کرد. یعنی نشانه ها رو سه دسته کرد. نمایه ها، شمایل ها و نماده ها. الان از ها بپرسنگه چه تفاوتوی با هم داره؟ نمیدونیم. این حقیقتیه. چرا نمیدونیم؟ چون اصلا اینا عرض کردن. خود این بابا 1914 مرده. ما دهه ها فاصله داریم. در حالی که یک گنجینه میراز نم داریم. قربشو نمیدونیم. یعنی کسی بلند نشده بیاد این مفاهیم رو که بومیش وجود داره بگه آقا این میشه اون حالا اینشو نذریم قبول میکنم میپذیریم اما در مقابلش اینوها رو درمون شما معادل ندارید نه شما بحث چون اصلا اهمیت این بحث جو راه افتاد اواخر بحثم مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد یعنی اصل بحث من نتیجه گیری مال آخر این جلسه است توی این جلسه مصوبه مورد نوازمون خام شد وقت فقط صحوری و مفایمیست اما فقط دا تصویر دارم توضیح میدم روی تصویر اصل برس میشه که آخر ما در مورد و مفهوم نماد صحبت خواهیم کرد که این رو هم درک نشده من تنها مقالهی که در این مورد پیدا کردم اون هم شنیدم نوشتند به دستم نرسید از اون مقاله های بود پول آدازیش میدادی در ایران یک دکتره علوم ارتباطات هستش که روحانی هم از ها ساتره اونلی ایراد اون پبلیش شد دینانشیه کهشون فکر کنم انگلستان دکتراشون گرفتهن خدمت شما عرض می‌کنم ایشون بحث اصلا برنج رو در یک حمایش نشریه در مطرح کرده و مقالش به اونجا ارائه داده. به غیر از اون هر چی گشتم ترجمه پیپر بود و یا یک سری موارد که اصلا غلط اصل از بیخ و بنیان مشکل داره. مثلا ما بین ها و نشانه ها برخیز متخصصینه ما تفاوت قابل یعنی نماد با نشانه فرق میکنه نماد ماهیت ذهنی و انتظائی داره اما نشانه تصویره دم دسته تو میتونی ببینی جالبه در یک دست‌رنجی دیگه شما می‌بینین نشانه ها رو تقسیم میکنه یکی میشه نماد قبلش گفتیم این دو تا با هم تفاوت دارن ولی یکی‌ش رو زیر شاخه اون یکی این مشخصه که کلمات رو شما متوجه شدین به این کار نکردین اهمیتش هم مطلقاً جایی موس جان ارسده. حالا این اواخر بحثه اونا از فهم کردن برای اون چیزایی هم که خورده میگیرن به اینجور مباحثات صد در در بیرون اکثر بی سوادشونه اونا هم به زبانی که اینها بفهمند برای هم خواهم گفت به عطف فعل رو استفاده میکنم نه اینکه متوجه بشن بفهمند چنان شما عرض میکنم که روند قراردادی بودن انتزایی بودن و عینی بودن بحث نمای شمایل و نماد به این شکلی که اول نمایل بعد شمایل و بعد نماد. اونچه که این ده آیتون هرچه از نمایه به سمت نماد پیش میریم نمایل شمایل نمایل قراردادی بودن اینها بیشتر میشه تجوهشگران غربی قائل بر این هستند که این نماد اصلاً ماهیتی قراردادی داره من و شما با هم قرارداد بذاریم این علامت زبدر یعنی پاک یاده نره. اما تو این ورانور دنیا مثلا یه زبدری شما بزنید یک برداشت دیگه میشه چون قرارداد متفاوته بحث به نمادها افرادی رو به بادفنها داده شما خبر ندارید. زلژینسکی معاونه اطلاعات از لنین یک وحشی واقعی به معنای کلامه 6تون یعنی بخواد یک موجود وحشی رو تعریف کنیم یک زارژینسکی این آدم علی کر اجی قریب کردن سر جلسه با لنین نشسته بودم لنین گفت آمار زندانی سیاسی اون چرده توی جلسه وقتی شما مسئول جلسه چیزی میپرسید یا کسی کاغذ براش میفرستید عرف جلسه بر اینه که یک علامتی زیرش می‌زنید که من کاغذ شما رو کردم مطالعه کردم بعد کاغذ رو برمیگردونید این, این نوشت پنجاز دار نفر زندانی سیاسی داریم در شورتی در خودت کردن رسیب نمیم این علامت زبدر زد یعنی چی؟ خون نمیش برگردون یکی از وجوه زبدر رو بلندتر زده بود کاغذ برعکس گرفته بود زده بود این که کاغذ صافتوزش علامتی چی شد؟ احسان زلیب زلیب نماده چی؟ مرد شب در یک تلگرافی که به زندان های سیاسی که در کل شوربی تفشن تلگراف میزنه که از لنین دستور رسیده تماما نفر کشته بشن چون فرصت دار زدن نداشتن کامیون ها سر زندان ها روشن کردن 20-20-30 کامیون روشن کردن سر و رو الله همه به اردبار بستن یک زندانی سیاسی به زندان ها. حتی یک نفر تأکید میکنم یک نفر جریان که این آقا در برداشت قراردادی از یک نماز اشتباه کرده نمیفهمن به خدا کسایی که این حرفهارو میزنند نمیفهمن این نتیجهاش چی میشه پنجاه هزار انسان که قطعا بافشون بیگناه بودند قطعا بیگناه بود انه متون محکم بگیم نمم همهشون بیگناه بودن اونو ما اعلانه رد بحث میکنیم. بحثشون بودن کشته میشن. چرا آقا عبدلوی یه چیزی دیگه برداشت کرد؟ وقتی مفاهیم قرار دادی، چیز از ذهن شما در کرد همین شهرای کشور خودمون آقا جای دورنمیخواد به عزیزانیم از همونجا چه بیشتر تو جلسه‌ام باشن، اعتراضم زیاده. چای که میخورید اگر استکان رو به شکل خاصی تو نلیکی بذارید، توهین تلقی میشه طرف مقابل. استکان رو برعکس ببینید در برخی از شهرها مثلا در استان خراسان وقتی چای میخورن استکان رو برعکس بزنید من دیگه چرا آره؟ نمیخوام تمام یا استکانیشون میذارن دونم بکی معنی داره این نماده کسی که در رفت میشه میگه این وقتی انداخت این چی؟ یه معنی داره دیگه خب اینجا آیا این نماده یا شمایله؟ آیکونه یا نماده؟ ممنون می بینید ماهیت آیکون بودنش بیشتر یعنی حالت قراردادش داشتش اهمیت داره چرا به خاطر اینکه برای شما جا افتاده است و میدونید وقتی یه چیزی افتاده است این یعنی چیزی مایه‌ای توش نمیتونه نگه داره حالا شاید از خیلی از مردم برای کره زمین بپرسید بدون چه قراردادی گذاشته باهم با بگید اگر به نفر خواستید قهوه ای بگید دفعه بعد اومدید ببینید استکانشو چپه گذاشته برعکس گذاشته افقی گذاشته یعنی چی به استعمال زیاد خیلی از اونها چی میگن من نیگه میمونیشی در قهره ندارم چایی ندارم اما در اونجا قراردادی ما که این توهینه در این که دوستانه قراره ما اما است که مهمانی که میزبانی که مهمان حبیب خدا سفرش بلای سرد میار که نفهمیه کجا خورده خبیب اینو باید برحث میشه چیلی جانه ایست که میزان قراردادی بودن آرام آرام از نماد به شمایه که میاد چند میشه در نمایه دیگه خیلی کم تره مثلا یعنی چی فرض بکنید که شما به عنوان یک طراح و میخواد می‌خواد از یک پرنده فروشی بزنید یک لوگو برای پرنده فروشی چکار می‌کنید طراحی کنید احتمال زیاد از نشانی از پرنده استفاده میکنید سر پرنده بال پرنده چیزی استفاده می‌کنید نمادی از پرواز نمادی از گردش باد در زیر بالها هر چیزی که شما به ذهن تو من فلمتو ها هرس گره خود یک سال اگر شما بخواید در یک آژانس هبا پیمایی نمادی رو بل بل بل بل بل بل بل رو ترایی کنید چرا میکنید؟ هم احتمالش هست که از بال و نماد فرنده استفاده کنید همین الان خیلی از آجانس هبا پیمایی میبینید همین نشان و نماد رو دارند فلزا میبینید ماهیت قراردادی بودنش و زیاد میشه اینجاست که یا سوخ پیدا میکنه میاخته این طرف ماجرا یا میره اون طرف فرش بکنید ما داریم که جاده حرکت میکنیم می‌بینیم که علامات خطر گذاشته یه داری گوز میکشیده یعنی چی؟ عبور عبوره پیوانات اخدوب بخشی اخسن عبد. اهلی چی میکشن؟ گاه میکشن این نما چرا تو حیوانات وحشی هست که شبو جवस ببر میکشیدن خرس میکشیدن اون چسی که داشته تربیت کنه فکر کرده شما فقط یه تاپری میرید یه عکس خرس دیزلی بلند شده دستشو میگیره میته بالا میترسید میترسید اولین خوفی در وجود شما به وجود میاد آیا طرا یک میزان خوفو نیاز داشته نه گفته همین گوز که وحشی اما زیبان هست دوستاشتنی هست هم خواهدتی استفاده کنم اون به نگاه مطبعه میبینه که برد بستگی به این داره اما در هر را چه خیز باشه چه گوز باشه اون میفهمه که اینجا یکه جنوان وجود داره و آروم بره این بحث است تفاوت این هاست من ما متاسفانه کل اینا رو در کشورمون من میرم که حتی از توی را کار میکنن. یکی چیز را مشا غریزی و فطری برخورد با توای مقوله چون نمیشمرید از باب شهود پس در نتیجه اگه بخوام یک کلمه بگیم اون بحث نماد و نمایه و شمایلو بذاریم کنار فقط بیایم دو بعدی بررسی کنیم میشه نشانه یعنی اون چیزی که تابلو شما میبینید عکس کیوان خدمت شماستون عکس کوهی که داریم میوفتی توش خطرناک درده قطعی نشون از دری میبینیم اما نماز حالت انتظاریش بیشتره فکر پیش دخیر میشه شما الان مثلا نشان یینگی اون اون ای که سفیدی و سیاهی در هم در رو بخوای به کسی نشون بدی که نمیدونه چی از این میفهمه ندنه ها هیچی نگاه میکنه شاید بند خوده هیچی نفهمه هیچ یه چیزای میفهمه از سفیدی و سیاهی در چه مثلا شاید برگرده به دیگه کسا خیلو شد بعد یه نقطه تو دل سیاهیه سفیدیه، یه سفیدی، نقطه توی دل سفیدیه سیاهیست این چیچیه دیگه نمیدونی اما وقتی شما میدونی این بحث رو دقیق وارد میشید مشکل رو حل میکنید این مباحثون حل نشده ما اندار موزد بود بنده بعد از این، اما چند مامه مطلقا دیگه در زمینه این محس صحبت نکردم مکررانه به من رجوع می کردن علا خصوص دانشجویان اونها. من میفهمیدن از چی میگن. مثلا آقا اگه میشه اینو حلش کنیم. مخصوصاً بعد از جلسه‌ای که ما دانشجو اونم مموری دانشگاه آزاد داشتیم. بارها بنده کردن. با من تماس گرفتن. بعد گفتن نه رو دیگه عمومی بررسی نخواهیم کرد مگر یعنی اینکه بتونید فرصت بشه بشینید ما در یه جای تخصصی چون هم موکولش به دانشگاه شما عزیزان. پس نما پیچیدگی‌هاش از نشانه بیشتره. خدمت شما عرض کنم حتی مثلا تعاریفی هم گفتند نشانه های تصویری مانند اصل خود هستند و در نتیجه متقابل کنندن و بدون توضیح تقریبا قابل درک در حالی که نماد منحصرا از طریق قراردادهای اجتماعی مفهوم پیدا میکنند شما چه بسیار سنی براتون میشدن که, که آیزر جنسکی این کار کرد میگفتی بیاییم به مهر و محبت مسیح همه اینها رو ببخشیم آزادش میکنید درسته؟ فلسه ما بیرمون قرارداری که بین در ذهن چیه؟ چه واسه شما یک آر بیره تراحیم بکنین زرژینسکی ها ازش برداشت بکنن که همون بحث نماچناس ایتاریایی میشه که بگیم چی؟ انحراف در نماچناسی صورت میگه که عملا هم دلیلش عدم تخصیصه و عدم فهم و جامعه شناسیه یعنی هنرمند ما جامعهشو نشناخته تافته جدا بافته بوده توی یه جای دیگه بزرگ شده توی یه فضای دیگه چرخیده مردم مردمو نفهمیده نمادی که برای تقدیم کرده اصلا ما مشکل واقفه از این به بعد اگر ما بگیم نماز همه ما دیگه عموما در مورد بحث نماز پیش نمی که پیش دیگه روش بیشتره رو موارد رو من مطرح میکنم خدمت شما اونجایی که قابلیت توضیح داره رو باز میکنم مثلا زبان ب... بر مواردی در نظر گرفتن نمادها نمادا نماد. نماد نه نشانه و یک زبان به طور عام زمان نماد نیستش چرا دیگه بیما قرارداد گذاشتیم که مثلا اینو من قبول ندارم این نظریه الان بازش میکنم که نماد نیست که قرارداد نیست من اصلا تو کتم نمیره که 6 نفر فرما بهم میگه جنب شدن بگم یه ازمت به این بگیم گرد اصلا میگم حتی منم نیستن وباصره اینو میگم و بسیار عجیب مقوله زبان شناسی و من آیاتی از نشان, ها... نشان هاش خوده دونسته. از نشانه‌ها خودی که این بسی زبان حالا بازش میکنم از راجعه میشه. به انابه خاص، حروف علفه، ها، نشانه های، نمیدنم، سجاوندی، باجه ها، عبارات، جمعه ها، اینها نماده هر حرف ما برای این صدا، اینش استفاده کنیم. خوبه؟ قرارداد گذاشتیم. قرارداد گذاشتیم سه برای این, برای این صدا. یه چه نفهمید چرا من گفتم سه بر این صدا صدا چرا به شب حرف سه توشه یه چه خودش چرا حرف سه تو سخنه تو صحبته تو سپیکه عجب این که من قبول ندارم برسیدان رو بخش امده از مفای مرد نمادشناسی زبان ها فتریست یعنی از درون ماه اینسان درش میگیره میخواید بست باز بکنیم در فارسی به تناول کردن چی میگید؟ خوردن صدای خوردن میشنوید شما؟ اید <متصفيق> چی میشه؟ یماخ ببینید این رو درش گنجونده صدای چی آب؟ حرف شین با آب گره خورده است آبشار نوشیدن عربی شر شراب ترکی اشماخ درس نمیگم عمومیت داره همه این ها نگفتن اون نگفتن دریموش مثلا اما قالب اینه حرف سه حرف س برای تا آ برای انتقال پیام استفاده بشه این بحثه در شما میخوره خوب دقت بکنید حرف سه شما بخواید بدون صدای نفر صدا کنید دور باشی چیکار میکنید سوت میزنید حرف سه رو مکررن استفاده میکنید. یه دایی شکل بزنید. خوبه. نه اشتفاق ببینید. شما اولین حرفی که انتقال پیام رو میده به عنوان نماد حرف سه. حتی اگه مخفی باشه. برینه. شاهکار قرآن رو ببینید. شاهکار قرآن رو ببینید. در حال در ها ماجراها آقا نفهمی کردین در حق شراخ این کتاب نفهمیدین به هم که دار وسوسه است مخفی پنهانی که از جاهای مختلف به سمت شما میزنه از خوش این ستون میادیم مفضبی رو میگه میاد از خوش تون ستونم مفضبی رو میگه شما دنبالش میگه صدای پنهانی رو شما وسوسه بسم الله پر خب شما نرهیم قل عوض و الناس ناس ملک ناس اله الناس من شر الوسواس الخ الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس سوره وسوسه با سین بازی میکنه بیا و ببین این چه جریانیاست مبنای این اینکه اگر بخوام زبان رو نوعی نماد بدونم میدونم اما از گرایشهای که میزال قرار داریش چیه؟ کمه به سمت نمایش شدن و شمایل رفتن چی پیشیره میره نفهمیدن اینها نکته دیگه در بحث زبانشناسی اینه که زبان عینیت شما میداری یه رفتی مطلبی طریف میکنه میگیم برسیم پیش فلانی به اون گفت و میگه گفت در ذهن شما لبهای تکون میخوره خیلی سریعی که ذهن شما میگذاره در فکراند ذه، ذهن شما بعد فرض کنید اینجوری بگه رفته پیش فلانی با زبون ببخشو عذ میخوام چون اینجوری استفاده میشه توی آمیانه با زبان کرولانا به این گفت دیگه چی میاد تو ذهن شما دستایی که داره تکون میخوره لبهایی که خیلی با اغراق و آرام آرام باز و بسته میشه چی شد چون زبان عینیت بده کرده در ذهن شما یک پیش پیشنهاد بر شما بدم کسایی که میخوان زبان انگلیسی یا عربیشون یا هر زبانی میگه بگیرم بهتر بشه. کلاس رو تصمری کنید ممسلح یادتون نمی تبر به زمانیم گیسیش میشه عکس اصلن میشه ع این های یادتون بمونه به چکار کنید؟ این بهش میگن روش کلید در روان سی آوزش داده میشه. چشم ها رو ببندید یه تبر رو فرض بکنید خیلی فکر از غریبی یا خیلی مخیب تخییه بقولیم با تبر بزندی عکس کنید با تبر عکس کنید با تبرعکس یه عکس فارسی ها پوستر عکس نصف شه سه سال دیگه از شما میپرستم تبرع چی میشه به انگلیسی همه تو عکس. اکس شما باید بلد باشید که چیکار بکنید این رو تصویری بکنید خیلی از مقوله ها یادمون میره به تصویری نشده نمادین نشده نماد یعنی تصویر اوج شکوه و شکوفایی نماد در تصویر در صوت نیست در تصویره، به خاطر همین افرادی که خوب تصویرسازی سازی میکنن برای شما، موفقه، شما در آیات قرآن باز دوباره همین مسئله رو میبینید مثل للذین فلا، مثلان للذیم، یکی اینو مسئله تا خوب بفهمید میخواد سست بودن یه خونه ای رو نشون بده و یکی و این او حلال بیوت لبیتل انکبوت حالا اولا به این واجارایی و مستجع بودن این دقت حال بیوط لبرتل اون اینش که به کنار از این مبولول صوت به نه و استفاده گرفته تطبیر سازی هم بر شما میکنه. تا اینو برای شما میگن شما یه تاره انک بود می بینید ج چشمتونه احتمالا مثل انکوت هم مجس چندتا اگر نقات هنرکبن تو شبنم هم به شکیده و آویزون فلاق رو ب ما. ععینیت بدید رو میخواد این خرید بکنید. مادرتون از هم دا که ماجره دانشگاه جوری شده که چ و چون همه مثلا سی سالگی تازه دکتاش و گرفته تازه دنبال زن میگرده باش. خدمت شمارز بکنم همسر تون مادرتون کسیسی به شما دستور خرید میده دوتون اوبرای به خرید کره به خط لا به خبر صبحونه رو برده بیاد. می بینید برنا که یادتون نره یک از روش هاش که کردنه، کردن. از روش هاش علی ای کردن این یعنی شما با خودتون فکر کنید الداری می تخونه بیرون از در حیات یه پنیر بزرگ آورده. با همینا هیچ ایرادی نداره واسه چی میاد به همینشه. میای میبینی نون بربریایی زدادو چیللاوسی. هیچ چیزی یاد این سازی باعث میشه که وقتی میخواد بری خریف کنی میگه خب بریم مرور کنم. از نام در حیات اومدم او اون پنیره بودم در حیات. بعدم نون بربریایی که زدادم خلا. بعدش میدم مادرم داره تو پارچ به گلدونا به گولا داره چی میده؟ شیر میده. هیچ ارادی نداره. اما یک بخشی که چیلید باشه که پیش میاد اینه که برای دو کلمه نماد واحد استفاده نکنی وگرنه پدر جون داره اونجاست که یا یک چلمه و از از میگی نمیدونم چرا یاد چی مفتده داره خودت هم نمیدونی برای که سر نقر واحد استفاده برمودید شما یه اینا بخش روش های نظام کردن و قدرت تفکرها اینقدر بخش نمودها اساسی است که اینا متوجه نیسته شما مثلا اینا بارخواه آذارم شرف بندن براتو بشونده خیلی دقیق و ریزاویرم که گذارش بده با خودتون میخواستید یه چیزی رو حفظ کنید دوتا کلمه رو میخواستید حفظ کنید دو تا شخصه تو تاریخ رو مثلا پدر پسر با خواهیتون گفتید امیدنه چون مثلا اسم این با ب شروع میشه اسم اونم با جیم شروع میشه بزرگتر از جیمه پس این بزرگتر از اون بوده این بابای پسر بوده این یه رو یکی دیگه هم میگید که نه اینجا برعکس بودن من رو بگیرم چون یه بار درست کردی یه بار عکس کلن به هم بریزی من هنوز که هنوزه خصوف, خصوف و خصوف و یادم میگوید چون یادم مونده که مثلا یادم بود یه وقت نمیدونم گفته بودم که این خیر با خورشید در ارتباطه باید بگم خصوص که اینم نیست ظاهرم درسته؟ اصلا چی شد من یادم میره برای نمادین کردن این مشکل داشت عزیزان فکر, نظام مند اینکه نظام مندی فکر ما نظاممند نیست به خاطر اینکه نظاممندی فکر ما آموزش ندادم در مدرسه ما به شما آمدن گفتن که آقا میخواد کتاب های شما عرض بکنم؟ یکی بیام همونی کتاب های نظامی گنجبی رو بیاداتون بمونه چیه؟ ملخ ها رو حبس کنید نیمش میشه چی؟ مصنبی ملخی؟ نیمش میشه چی؟ اخسر مخزن و اخسر لام لیلی و مجنون. شیرین، هی. هفته کرد زدید الفشان، نامه خب ببینید چرا این کارو کردید؟ شما سراش شاخه های نمادین گذاشتی. میدونی چی شد؟ بذارم من به شما بگم. شما وقتی ببینید تصویر چقدر مهمه. شده یادتون بیاد اینکه امتحانی دارید، جواب میدید، یه سوالی رو میخواد بنویسید، میگید أشای یادم یه گوشه بالای اینجا یه کتاب بود. ینی آره راست میگه این چی دارید میگید یعنی چی یعنی این برای همتون پیش اومده اما درسته فایده نمیشه من بعد چیکارش بکنم بهتون حلش میکنم بتونم شما وقتی میگم خیلی میگی خسرو و شیرین اون شیرو تو حس میبینید چون خسرو و شیرین رو دیدید دیدید یادتون مونده اینو به شما بگم به خاطر همین میگن چیزی رو که خوب یاد نمیگیر کنین تصویر کردن یعنی این حدیثشو براتون بخونم قید العلمان به کتابت علم رو با نوشتن به زنجیر بکشید. هم به معنیم که این حفظ میشه برای آیندگان هر این که حفظ میشه برای خودت به زنجیرش کشیدی شما یوهایی میوید نازم با زده می نمیسید درسته؟ مثلا گذاشتن ازدهش رو خیلی اشتماع میکنن خب اشتماع می نمیسید یوهایی نگاه میکنی میبینی شکل کلمه خوشگل نیست می این دعا میذاره مشکل داره این اینیت یافتن زبانه یعنی ما حتی برای درک مفاهم املی خودمون از نمادها داریم استفاده میکنیم بیان که بدونیم. بیان که این رو بدونیم متاسفان پس زبان من ماجره ها داره میذارم خیلن وگر این بس مثلا بذاری این رو باز بکنم خوب شما بدونید ببینید شما میان برای شما یه اسم میذارن ترمینال رو میگن بگی طایانه هیچ‌چی استفاده میکنه می‌دونی چرا اگر زبان قرار دادی چرا استفاده نمی‌کنه چرا هواپیما رو استفاده کردن نمی‌دونن من به شما میگم تا بدونم چیه در فطرت شما آمده و اینجور نهادی شده حرف آ نماد بلندیه میگی آسمان باستان چند تا ما پسمند شباهت در زبان فارسی داریم؟ گونه، وار، وش، مان، هم سلو. سا، فلا، درسته. آس یعنی چی در زبان فارسی؟ سنگ آس آب، میشه چی؟ آسیا، آسی که با آب میچرخه. همین آس تو رو کن، همین ما. بازی ویلت سنگ برنده، یه بازی بوده در اقوام کوهن استفاده می شده سدیشی تو مایه هایی خب بعد اون سنگ برنده شروع می کرده بازی ورن رو از پولهای چینی گرفتن پولهای چینی روی بعضیشن اکس پادشاه بود بعضی اکس سرباز بود بعضی اکس مادر بزرگی بود قمار می با این پولها انگیلیسی هایی که رفتن گرفتن یاد گرفتن این آور آوردن اما ادبیات کهان خودشن هم حفظ کردن اون برگی که خیلی نابهرو میگفت کی؟ آس. آس یعنی همون سنگ. دست تاس. درسته؟ دست آس. آسی که با چی چخفه؟ با دست. آسمان یعنی ما یعنی مال سنگ، یعنی شبیه سنگ. چی بود بر مبنای نظریه ایرانیان باستان میگفتن زمین ثابته و اون بالایی فلکی که داریم چخفه؟ و شبیه سنگ همین دست بسید هم این ثابت پایده جده چشش شد همیشه چرا نگفت آسوش کما اینکه میگه سیاه اینجا نمیگه چون آسمان نماد چیه بولندیه یکه آسمان حالا فهمید چرا هوا استفاده میکنید چون همهش آدونه هوا ما، درسته؟ ایرانی ها اصلا همه مردم هم. مخصوصا مردم که پیشیدگیشون زیاد شده فرهنگ بس همه دورشون رفته به سمت رو که کلمات سخت استفاده نکنن تیاره خیلی آسان تر سبب میمست اما با این که ما در چند سال پیش خودمون گفتیم چی؟ تیاره اما علاقه دیگه نمیگه چون اون کلمه رو بزرشت یعنی اون عزیز ما که تو فرهنگستان لغت نشسته نمیدونه با مفهوم نماد آشنایی نداره تا میگن آسمان یک بلندی به ذهن من میرسه من حرف آرو رو گذاشتم برای همون نمی دونم قاعده استفاده از این. خیلی از طلبواس حسش کلمات, کلمات انگلیسی سری جواب تر جنمای رو میام برای چی به خاطر اینکه با اون متن چی بود جور بود اما خیلی کلمات سخت بود چون با بحث پتنه ما جور نبود استفاده نکردیم نکردیم این مباحث بعد مطرح میشه ماجرایست عزیزان زبانشناسی دنیایست میرید در باشید اوگیانوسی بحث علامات, ها. علامات های رمزی نماده بله نماده بازم همین هم جایی بحث دارم های ملی نماده آقا چه ده آبی گذاشتی برمز گذاشتی مثلا پرچم ایران مثلا مثلا یه تیکه چه می‌دونم قرمز بوده، سفید بوده، تیکه سبز بود مثلاً، چه فرقی می‌کنه؟ مثلاً دیو مایک لازم نیست که تیکه سبز نکرده. مثلاً چی می‌شه؟ این پرچم که قرارداد گذاشتیم، اما پشت سر همین قرارداد هم باز هم تفکر خوبیه قطعاً، قطعاً. یعنی مردمی خاص یه جوری خاص نگاه می‌کنه. مثلاً ژاپنی‌ها چه واسه اون پرچم سفیدشون، اون لباس سفیدی بوده که این رزمنده سامورایی زیر پیرهن سیاهش تنش میکرده و وقتی شمشیر میخورده به اوج یک فضاکاریش رو انجام بده بوده پیرهنی میشه پیرهنی سفید دیشه پچمه ایجا خون اینه یک جویش دیگه شما عرض بکنم یعنی از کجا گرفته اینم هم بحث اینکه فقط یه قرارداد دارد باشه نماد تیز از گفتن بوخ های سگانه بوخ آزاد اشغال زنگ تلفن ما میتونستیم مثلا میخواست طرف میخواست بووازاد میخواست بخواست بوو بو, بو بو وقتی اشکاله بگم بو ها قرارداد گذاشته زمانی که این قراردادها خوب برمبنان فطرت انسان را خوب به جان آدم میشه. یک عمرمن دیگه میشه فطرت چی ناسی؟ کارتون دارم بخیلی جاست اینا را خواهم که چه کار باید بکنید؟ چی رو شما باید بفهمید که بردانی نفهمیدن چی رو می لانج فرمید وقتی گفت من این مجسمه رو چهارش کردم؟ تمیزش کردم. نگفت تر گفت تمیزش کردم. این مجسمه به این شکل از قبلن بود. من زیر این لایهای های اضافی سنگ این رو پیداش کردم. شاهکار هنری تا, تا هنرمند از این جهت بیزاریم آخرتا. من هم برم توش باید تا ایش برمه باید از چرا راهنمای نمایرانم دیگی سبس یورو قرمز یست زرد احتیاط کن این قرارداده بله قرارداد همه جای دنیا همینه جاییستش سبز بشه شما ترموز کنیم این جهانش داره اما همین جوریه نه باز هم این نماد به بود چه تو توی حیوانا نگاه بکنیم حیوانه فرنگ قرمز نارنگی زرد دارن تفرمو کرد بخصا سمیه برشون فاصله بگذارد در وجود شما این گذاشته شده شاهکار خالق هستیه شاهکار خالقه هستیه میدونید بین رنگ دانه های قرمز انار و گلو بول قرمز خون هیچ رفتی وجود ندارد اما همه می های قرمز خونسازم شاهکاره به خدا نمیفهمیم این ما این متوجه نیستیم یک تک کنید نفی خلق سماوات و العبا به یک فکر کنید اینجوری ساده نگر هنری باشه ریز کوانتومی باشه ذره ذره پیش بدید ای نبینید توناج نگاره کنید به طبیعتی منظوره بشنگیون به خود رو باید چند وقتی فکر دوستان رفته بودیم محلات من, من برنامه داشتم این عزیزم همراه ما آمده بود برای شخیم باش میکنم بعد هم فیلمم ب راست تو گلخونه گفتم واصه گلخونه میبینیم گلخونه رو نگاه کنیم توی چی اینجوریجوری نگاه کرد و آقا این سوره چند در میاد کلن میخواد از اون گلخونه با اون همه زیبایی دی؟ این آهانا رو مثلا فلان میگونه چند در اومده فلان این چیزها اینا چیه گفت این گل قهره دست می‌زنی قهر میکنه. دست دستش یعنی برخوش جمع میکنه خیلی جالبه یه کی ذات وقتی کلاش کلانی بربا کلا قهر کرد. کلاً کار داشت جدی میگم چون واس محلات تهران آوردی باز نمیشود. فکر کنم سوخت سیستم داشت داره ننه میوخته. بیچاره فهمیده سنسور داشت که در صدایی ما به یه دردش نسه در می سر جت بقیه بازه. هیچ جا تکلیف تلفن کلاً کار میکنی نه؟ فیوز از دم در شد. خب. این نگاه نگاه رو ما میخوام. این نگاه ما میخوام نه. هر انسانی علل خودشون انسان کسی که به فطرتش بیشتر اونجوری میکنه. چطوری فکرستش رقیفتر راحت درداشت می کنه اونی که اشمید محرمت اصلای سفید نماده چیست؟ صحبت اینجا پیش میاد. چرا اصلای سفید نماده ناوینا باشه؟ اینجا کاربورد مطرفه چون اگر اصلای مشکلش می دادی می دادن دیری نگاه بنده خدا متزن. اون استیفیدی چی داره؟ درخشندگی داره. شما معلومه این که شب اومده، تو این استیفید نوابچی می‌زنن شب رنگ. چه چرا بعد از مدتی چی بشه؟ مثل کلاً ازای شب رنگینه. ها؟ چون بیشتر از استیفیده. اما امروز من اگر استیفید دهستم وردونه چه شما سالم باشه، فرمان نابیناست است. قراردادی که ما گذاشتیم با هم. چه لباسه مشکی که نشانه چیه؟ عزاداریه. اینو نمیگم آخر صحبت میکنم. بذار همین‌جا تو بحث با هم خوبه. که آیا یک بحثی از کاربرد به مفهوم رفت یا از مفهوم به کارورد؟ ببینید، من یاد داشت کردم. این مفهوم باعث به وجود آمدن نماز شده. مفهوم باعث به وجود آمدن نماز بشه. یک کسی، قدیما کسی بیان مش می‌تنهش نمی‌کرده. بعضی می دونستن یک کسی یه عزیزش می‌مرد. که دنیا می‌شد. اینم خب در چه فیلانی میخواستم که ماد پدرم، مادرم، همسرم یه هر کسی این این کسیف میشه لباسش اونقدر تیره میشد فلیزا وقتی نفر رو میدن لباسش تیره است میگفت این عزیز از دسته بایچ این باب شد و یه آدمی هم که یک کسیش بمیره آدم ترتنیز هر روز رو در نیره میشوره اما اونو میکنه اما اون رو چگاه میکنه استفاده میکنه از مفه اما بعض ما باز کاربرد و مخونی بود مثل همین اصای سفید چون کاربرد داشته با مفهوم مخون ساختیم الان میان آقا در مورد اصای سفید شعرها میگن نه مفاهیم از توی اصای سفید داره بیرون میکشه اصای خودی بر چی بود چونه بود؟ کاربورد مخونی بود شد چون سفید بود درخشن دیگه داشت توی شب دیده استفاده کرد اما شما خدمت شما عرض می‌کنم اصلا اسای سفید شده اسم جشنواره‌ای که برای ما معمولاً برگزار می‌کنن شعرها میگن ای که سفیدی اسای تو ما را فلان طب احمد او اوه ماجرا داد خاموش شدن چرا و اتوی برگی نشان قراردادی است برای گرم شدن کیت این قراردادی بر برعکس بشه اما چی شد که اینجوری گذاشتن یعنی نور یعنی حرارت ها اگه ادامه داشته باشه حرارت زیاد میشه وقتی این حرارت حتما اینی که میگم نموده همش خصوصاش چیه؟ فکره، مفهوم خواهی داره. نور پردازی با کنتراست بالا در سینما فیلمز نشونه چیه؟ مویدی، روزا و وحشت و درد. عکسش هم شما دارید. یک نماد شفاف و روشن نماد صداقت، بداست، تمیزی، پاکی شما یهو یه جایی مثلا تو فیلمایی که در مورد درافیول‌ها بود جزءا می‌سازه بیچاره می‌گویند بیا از یکی چرم این نور برینم میوچه بیچاره‌هاست دل باز میشه از این عنوان خیلی قشنگه مثلا در فیلمی دخترم سحر و چیشه بود آمریکایی ساختن بدون دخترم هرگز اینقدر فضا رو سیاه ها بیزار میشه دیگه وقتی نجات یک آسمان یک پرچمی رحایه چونان در پشت زمینه زنگین رو میچشک که با قلم و مغارم نمیتونه دیگه اینو بکنه کار رو شما نستید این کار چون زیرکانه و زیبای این کار رو حجم یه خودش کازه مفهوم نماده بود به این سوقت خالی فیلی نماده خیلی سریع میگم چون خیلی از مرباستم اونجا شهر بدم بسته هزیده بحث نماد شناسی به نماد نمادشناسی به لحاظ تاریخی، چرا اولین بار به خاطر ساحت‌گودار نوشتار به حساب گفتار وجود دو باشه؟ یعنی مردم دوست نداشتن، بس نمی‌شه چیزی بنویسه، یهو حرف می‌زنه. این مال زمانی که زبان بوده، یعنی آ آب, آب برام بیاد. درسته؟ اون مثلا آ رو بگه. اما فرض بکنید بشری که انتساقا چی بگه؟ یه که مثلا ببر این یه صدای بده آحلله آقا گفتاد همه بودم آ اینو اس ما بعد میاد یه ما یه موقعش هم اینی که میخواد بفهمونه نمیتونونه یه شکلشو میکشی مثلا بشر اط نخاصی رو فرض رو کنه که میخواست بزرگ کوی برش بیاری و شکار هر کار میکنه اون نمیفهمه ها میشیم. ما شکار می یه بر شکار میکنهیه ب کوی می کشین اون معجربه ها قی چندان بزرگترین دانشگاه هر انسان جامعه است به خدا قسم حرفه مردم رو رفتار کنید رفتاره مردم رو ببینید تو زبان ترکی لحم خیلی سخته زبان ترکی زبانی بسیار ساده است بسیار بسیار ساده و یادگیریش از زبان فارسی آسان این زبان شناس روسی میگه زبان ترکی سرطانه به این معنی که هر جا رو میاد چگار میکنه سریعی میگیره ما در زبان فارسی برای اینکه یک فعل رو یاد بگیریم، حتی اگه می‌خواد فارسی یاد بگیره، باید دو تا بن بگیره. یکی بونه مزاره یکی بن مازی میگن مستر رو نونش رو بردار. پس شما برای این که کلاً بتونید رفتن رو صرف بکنید چه در مازی چه در مزاره یه رفت باید یاد بگیره، یه بن مازی رو. اما تو ترکی یه بنیاد میگید این به خاطر این کارش کار می‌کنه، آسون اما به خاطر داشتن دو تا اضافی، لحنش سخته. ار e, ا، او آی او شش مصابه اما توچه به این ای یه ای داره بین او او یه او داره به خاطر این وقتی میگه علوم, علوم علوم یعنی به دنیا بیام. علوم یعنی بمیرم علوم یعنی زوزه بگیشم خیلی بیسخت میشه با چشیدنه یا معنی فرمانی لحنش خیلی سخته مثلا اینه یعنی گاف اینه یعنی سوزن من دیدم خانونی رو که بند خدا میخواست فاس بود به بند خدایی بفهمونه که من سوزن میخوام در خونش رو رفته بود من دیدم که دستش روزه شد سرش اینجوری جوری میگم همونی که شما شکل هم میدونید میدونید اینو گاب و سوزن رو شبیه هم میکنن سوزن میخواست اینکه گاب در, در میگونید خیلی جالبه اصلا یه لابراتواره عجیب این اتفاق یک زبانشناس آلمانی اجازه گرفت 5150 5100 تمام کلمات مذهب آمارو گوش کنه به شرط اینکه حتی اگر نقشه قتل صددرصد شنید لو نده اما نظر کنه خود دانشجو شما بعدش میاد چیکمات گفت گفت من به این نتیجه رسیدم شما حق ندرید مردم بگید این قبایل رو, رو رایاتون تو صحبت درست بلکه این قبایل که از صحبت کردنم مردم گرفته شده نوشتم حرف یعنی چی تو فلسفه ماست خیلی پیچی دیگی بسیار زیاد پس انسان ها می مدن چکار می کنن باید دیواران و نماد می کشیدن تصویر می کشیدن یا بوز می کشید تمام دارو ندارست امین بوزه هست خورشید می کشید دارو ندارست چیه؟ خورشیده خورشید نماشی یعنی زبستون یعنی شب یعنی وحشت یعنی وحشت برای اینکه انسانی که تو قار داره زندگی می کنه زبستون یعنی چی بیچارگی. اما نور براش مهمه خورشید براش میشه یه اص و بعدها میره بالا تا مقام چی؟ خدایی میح پرستی و الفرستی راه فرستی، ایران بینون نهر مصر عجب من بعد اینان بکنم بفهم ادام فیدام کنه کلام نمی‌تونی نمیتونه سردفه چون سختی نوشتار مثل آوا سختره نبودم قلم کاغذ نبود بنده دو سال بعد قلم میردش و چکش این بوز بکی جواهری لیوان آوازمو لرده بیارید بیاری ببند نمیتونستم قرار قراره حرف کوزش این حرف هم بر مبنو بودشن اسکرام مثل خوردن نوشیدن و غیری که خیلی زیاده بسیار بحث عجیب است مثلا حرف کاف چه حرفی که خالی میکنه در بسیاری از زبانها ناسزاهایی که تر میشه و حرفی که ترکیم میشه. و میسازن اصلا بر همین مبناه. نمیدونه شرا اما داریم از استفاده. از چهار هزار سال پیش و برشه حتی میگن چهار هزار سال قبل از میداد. یعنی دو هزار هم بذار رو شغل شیش هزار سال پیش اولین نمادها و نمادها شکل گرفتند. اما در این چه کار نقاشی کشیدن. آرام آرام کشوند. کجا ها کشف شدن؟ در درره، در مصر و در های رود سند مربوط به تمدن هایی که تون منطقه بودن. این طرف بالا. شما شهر پیدا شد. سومری ها هزار سال پیش حروف میخی رو اصطلاح انقلاب رو وجود در انتقالش در سرعت انتقال چیه؟ این انقلاب در سرعت انتقال مقاهم. فینقی ها سه هزار سال پیش سه هزار اولین حروف الفبا رو وجود دارن. یونانی یونانی‌ها از رو یاد می‌گیرن لاتین از یونانی یاد می‌گیرن بعد یونان پخ میشه میره بعد باز از لاتینم میره به آلفبای آرسوسی بعد پخ میشه میره ببینید یعنی یه به شما میگم فینیقی یونانی آتروسکی، لاتین این چی؟ این زبانو میدونن حروف الفبا میزنه این کاها چطور انتقال مفاهیم میدادن حروف الفباشون می چجنده کی میدونه تمام بوده تنابهای رنگی به میزان تعداد گریهی که روی تناب زدن. یه جوری مثل خط چیه؟ دهیده. از برامدیگه تعداد اگر روی مثلا تناب چه میدونم نارنجی شیشتا گریه یعنی این اگر روی سبز گران شما مبیدی یه آدم نخ بود بله, بله بله خیلی حالی به نگاه به خدمت شما عرض بکنم آرام آرام اومد و بعدها علفگاه های ما شکره برخی قائل بر این هستند که علفگاه اقوام هندو اروپایی اصلی سمتورد شده و این, این خیلی نشده همین قول معروف رو من عرض کردم که از فنیقی‌ها های یارسو شده خود حروف علف ها یک نماد ها بودن. می میگفت حرف این این صدا شه یه این نشون بده بر زبان هم به مرور زمان الان یک از عقب ماندفنی زمان ها زبان چینیه زبان چینی اگه شما سرما بخورید کلمات عوض میشه. این توناژ سیزا تأثیر داره یا برخی میگن حتی چینی کهان چهار اضافه کلمه بوده فقط این کلمه ها کنار هم دیگه مفته تشنه آب من نیست صحب بسه جوجه هم تشنه آب من یه من تشنه آب برورده بیار من خواب صبح امتحان افتمام شده عجب. هم. عجب اینجوری بعد چی اشرفت کرد شد زبان ژاپنی. الانشون ها خیلی عقب ماندن به لوازه زبانی در زبان ژاپنی بخش بخش دارن. ای بی سی جی اینجوری دارن. بخشه. اسما رو نگاه کنین. جی لون می. کات کات کات. اونایی که خیلی پیشرفت کردن، اومدن قدرت تحقق فزی شوند. مثل چی؟ مثل اینکه به نفر گفتم یه شهر بسازید، به نفر خونه دادن، خونه بسازش، به نفر اومدن در و پنجره دادن، یه نفر خیلی زرنگ گفت گفتشیمی؟ من خودم دوشکاری دارم، کارکن دارم، مهربان رو بده سیمان آهن، زبانی که ما بذاریم، ما حروف رسیدیم ما به چی رسیدیم به حروف یعنی قدرت ساخت رو بیشتر در بالا می‌گذاریم. فندازه وقتی شما میدید در زبان عربی حروفشان از ما بیشتره کلمات بیشتری میسازن بیشتری مگی؟ ولی که چهار تا هم که ندارن نه عزیزم به جاشون چهار تا که اضافه نقاط تو ت دارم بزر همون ته ها رو من شما میگیم چی؟ ت سه ها رو میگیم از چهار تا ته نداریم <تصفيق> سه ها رو میگیم چی؟ سه در حالی که ساد سه سه زه, زه بلا ظالی ظا خوشت زبون زای معلقه که ز دست دا بخوادی و ز لذیذ حالا شما اگه بگید اسم میشه نام اگه بگید اسم میشه کلمه. اگه بگید سامد یعنی بیریاز بگید سامد یعنی چاره اب، بگید سامد یعنی کودشی ناری برای نیا بفهمی خود مراج نماز داری چی میخونیم توششون بیشته کلم ها بیشته میدازن اصلا عرب وقتی فیل میستازه اصلا عجیبه برای شب رفتن نبی چشم آب بردن یه فیل دارن نوز برن یه فیل دارن ما میگه خون خون خونه دیگه انگلیز هم گه بلود توجم گه گان اما عربه 15 تو خون داره خونی که توی رگ دنه، خونی که بریزه میشه سار، خونی که لخته میشه میشه علق خونی که توی قلب جمعه میشه موجه، باز یه خون دارن انا نومان، یه خون دارن اوه یعنی چرا حرف میزنه میگه سار، اوه میگه آخ آخ بگر کشتن چون خون ریخته شده، کار به ضرب و شد تیزی تیر تیزیکیگی گشیده اما ما میگیم خون، خونی چی؟ خون نماف شدی؟ خونه دل خونه به دلت. دلت کردن، چی بابا؟ با؟ با. خدا شما از کنم بست دامیدیم بعد هم این مچکنجاز این حروف الف با و این شکلهایی که به وجود مد بیشتر برای چی کار برد داشت اول از همه برای انتقال رمز و مفایم به این ادهی خواست مردم عادی سواد چه چیزی رو نداشتن یک سری آدم خواست این نمادهایی رو بین خودشون گذاشتن سه تا اقاب یه پلنگ یه خوشید یعنی خطر داشته باشید رمزها شکل گرفت و این مدت ها بود که ربهان انتقال پیدا میکرد یعنی عصب بشر علاقه ای نمیشد تاریخ نداشت اصلا هیچ چیزی رو نفهمیده بود درک نکرده بود درک نکرده بود مگر در تاریخ خدمت شما عرض بکنم بنی اسرائیل که بهش مکتوب دادن میگه حضرت موسی توراتش رو چیکار کرد؟ نوشت بشید من میگم آقا برید شما بس زبون شریسه خود اروپاییا کن میگم ما حداقل 4 5 نوع ادبیات فقط تو تورات میبینیم 4 5 نوع نویسنده شئله مختلف استفاده شده. لیاقت هفت کردن نداشت بشر. سه هزدار سیستر سال بیش بوده. میداد فاطح همیچی رو میخوند. تا به مرحلی میدیدید میتونه نگه داری داره اینا رو. یعنی نوشتار و علامات نوشتاری و نماده های نوشتاری وسیله میشه دیگه برای انتقال چی؟ دانش مفهوم تاریخ به مرحلی واقعی این چند همه. که این اسلام شکل بوده. علف های گوتیک، علف رونی، اینو علف های رمزی بودن. های گوتیک، اینو بعد بیدارید شما معماری گوتیک هم دارید. نمیدیدیدید چیه. گوتیک از چی گرفته شده؟ به معنی بوزیه یا به معنی بربریه؟ بربری نه بربریه، بربر، اغمان بربر. بخشی های کمده می به شمال اروح ها. از اون بالا می زدن پیدر اینا رو درگیر بودن. فیلم 13 همه سلشون میده. خیلی از زیرکانه به ذوالفقارین که در قرآن اشاره شده یه نیمچه ایما و اشاره ای می میکنه چطور شما میبینید احمد ابن فهلان ابن رشید که به 17 زبان زنده دنیا تسلل داشت اون زمان از مفاخر جهانگردی اسلام بوده ما اون موقع عزیزان مستقرب داشتیم یعنی کسی که میگفتن غرورون میزدن نمی نوشتن تاریخ می نوشتن حالا یه دو دونه دو, دو توزه دوا واسه دارو بخاله بده بکنی حالا برداها کلا جریان برگشت این زمانی که میره اونجا میرسه به مردمی که زبان نمیفهمیدن. لا یکادون انفهمون قولا. آیا قرآن بعضیش عین هم ترجمه شده. بعد زبون اینا رو فهمید. این یاد گرفت. یه جدیست دور آتش شسته‌بودن یه خوش به مادر این دادن از گفت مادر خودتونه. اینا فهمیدن یاد گرفته. عجب گوشی کلا. رسیدن رفتم به شمال اروپا به قوم رسیدن که گفتن یه وحشیایی ها به ما حمله میکنن. قایاد در قر... زن غرمند و ماجوج اینم اون اصلیه اسلحه کرد. به مادر حمله میکنه، کمکش میکنه. اول مادر 100 ساختن، بعد کمکش این کار تو قارهش اینا رو از ببردن. یعنی این مفهوم خیلی قشنگ یه اومد استفاده کردن. کاری این بس شغل رو در گردش میگوشه گوتیک به معنی اوناست. خب؟ از اونجا. جهت. رمزی. خود معماری گوتیک معماری تیزه. بلند بلندی که کش تیز میشه. و شوالیه های تمپلر، فریمیسن های تمپلر، در شکلگیری اون نقش اساسی داشتن نقش اساسی به کلیدی داشتن. اینا میفته بعد جلسه بعدمون. که در مورد این جلسه هم وارد و مقایسه میشه. مفهوم رفت وارد تجارت مردم شد. چوب خط. میگم 3 تا اینا فرچه، چوب این همدیگه داشتیم. میگفتم سه دو تا چوب کشی، سه شما. می راست میگه گفتن چقد به دکاد چوب کلانم میگه چوبخط میگه چوبخطی الان ما میگه چی شده؟ گفتم ببین در پدر سوخته الان نمیذیه ورده دیگه من کجای خط بکشم درسته آرام آرام آره ورده تجارت شد پس میشه چیکار اینجوری مذهب بکنیم که شستانی که بیشترین بهره از نماند خاوردن جادوگران بودند کیمیاگران بودند حکومت ها برای انتقال بود برای بزرگداشت خودشون در نقش روستان میاد میزنه من فلوق فلانجا را به ساعرت کشیدم من فلان کلا من به همان کردم درسته در بزرگذشت خودشون دن. دانشمندان بودن روحانیون بودن ورای دینی. الان نمادین ترین کتابای زمین کتابه دینیم شما مکاشفات یوحنا رو بخونید هیچ چیز بیشتری در نمیارید چرا اصلا به زبان نمازهاشون آشنا نیستید میدید مثل چه زبان دیگه نمازهایی که قرارداد گذاشته شده غیر اینه به عنوان مثال آیا وقتی شما چه میدونم یه نفر توی زمان برنامه داره استفاده میکنه یک اصطلاحی استفاده می‌کنه که شما متوجه نمی‌شی یه سی بزن رزن سی ما بخوام میگیم یه پاکش کن تمام سفر پاک کردم یه سی لس بزن سن تو داس درمیسی داس آتون چوبه ایسی که چیز دیگه میشه تو فاکس چیز دیگه است زبان ها تحقیق کنه تخصصیه ا تخصصی داره اجتهادای در آخر الزمان برمیخیزه این اجتهاد چیه آه اونی که میدونه زبان یعنی اجتهاد یعنی چی شیر یعنی چی پنج عقابی یعنی چی خدمت شما کنم شاخ اصلی یعنی چی اون وقت اینو میتونه مفهوم بفهمه علم تعبیر خوا شما بینی که حضرت یوسف میاد گاو رو به منشی میگیره سال. یعنی سدول حضرت یوسف دیده که اون موعظه نمیستی گفتم ما فقط یه چیزایی دیدیم که گاو به سال رفت داره. یه علمه زبان زبانو باید فهمید. اون زبان به بعضی آموزش داده شده. اون میتونه بفهمه چی و این شما نمیفهمیم متوجه نمیشه. حضرت دانیال تو خواب دید یه قوچی دوتا دو تا شاخ داره به زمین، زمین داره میکنه. هی حضور کوز ککاشه بعد یه گوز نری ککشاش بهش حمله کرد اون از دلش رو داغونش کرد هیچ ازش متوجه نشد میگه من مات مونده بودم جناب جبرئیل در مقابلم ظاهر شد کتاب احتصیب یهودیان نوشته میگه جبرئیل گفت ای نادانا زبانی رو به یاد میدم وقتی برایش ترجمه میکنه کنه جالب بعد از اون حضرت دانیال خودش دیگه میترجمه کرده زبان رو بهش یاد داد گفت اون پوچی که تو دیدی پادشاهی که از ترکیب ماد و فارس به دنیا خواهانچی گروش، زلقرنه، صاحب دوشاخ، ما بحث زلقرنه کامل کردیم به دیر بیارید. همین دیروز پریروز بود بحثش کامل انجام بدیم خب، صاحب دوشاخ، اون بوزه فلا فلا, فلا فی شده این فرشاخ ازگندره فادشای یونان، اسم میبره میگه و فادشای یونانی که مید اینان میزنه میکن بعد شاخ شکست از شاخ چهار تا شاخ در بعد از اسکندر یعنی این 4 قسمت چی شده؟ تقسیم شده حکومتش رو قسمت به قسمت گذازه. فرید آرمانی می‌فهمی که این شاه یه وقتی به چی داره به حکومت داره؟ به شاهنشاهی داره. بعدش رسید چیکار کن از دنیا خودش یاد گرفتیم این درسو. فرید ما می‌تونیم اینجوری بگیم. پس اول برای خود فرب معنی داشتم اما تا عشق می‌کد میشه مثلا برای خودشه چيله می‌کشه تو. حال می‌چد اما طرف گردش می‌کنه یه چشمی می‌کشه و ایشا میآیه عصا اشی تیر خورده تو قلب و درخت نخلی و واقعا لم داده و اینا بس خودش داره میکشه انتقال مفاهیم بس خودش اتفاق در درن به هیچ کیان نمیخواد مذاکره خب من رو واسه بعد برای ارتباط برقرار هم با بقیه که پیکتوگرام ها استفاده شدن یعنی چی این ساده عناصر ساده تایید بوز میکشید مراقبت بشه چه قسمی میشید توی خارج مراقبه هست دارن پیکتوگرام ها آره آرام خوش بدم می‌کنن شما مثلا تابلوی راهنمارنگی اونم پیکتوگرامه مثلا ببین بنده خدایی ماه رمزون رو با چینشو میدن نمادش احسن هلال ما به بنده خدایی گفتن تابلوی هلال احمر نشون میدادم بشی تو جاده گفتن این چی گفت خطر ماه رمضان نزدیک میشود <تصفح> <تصفح> خب همین جوی که ما داریم میسازیم خیلی جلاوه همین جو یعنی بخت نمادی داریم مطلب خلاصه بعد برای ابراز خطر استفاده شد مثلاً چی؟ مار میکشید اینجا خطر وجود داره برای اینکه مار میاد بشون به عنوان مثال وقتی این قبل نتیجه اشتباه استفاده شده شما را هستن تجربه برندیز آروم بهداش جهانی یه ماری دوری یه پیشیده. پیچیده هیچ وقت ملت با این نماد اخت نمیشه میره می این بهداشت میخواه من نجاتم بده و از این ماره چی رو من زمین میترسم این چیش رو میخواه من یه جور جود داره مثل این تاثیر تفاوت نمادهایی که دارن کار میکنن جود و به عنوان پروفسور در انجمن میزنه کارتون در حالی که برای عموم ها جود چیه؟ شومیه. چرا نمادش شومی شده؟ برای اینکه این بابا شب اینو دیده نمیپره تو فاز تاوچ. یه سری عجیب بری و وحشتناک. روب چی خرابه ها زندگی میکنه؟ معلومه شومیو ترس میاره. بعد میخواهم پروفسور جاش بنویسم. بوز نهاده ترست، نهاده پدر سوختگیه. هی، بون سعی کوربه گر می‌دیدن، بوستان بوستان گر می‌دیدی، متوجه می‌شدی من چی میاد. مثل ما داره دوستیه. بوز نهاده افرادی چیفونو به اتاق می‌کنه بوز. یه وقت بوز غلبه نمونه اینقدر وقتی شروعه تند. اما با ترسو، حور و ترسو، بوز دل. مثل بوز میترسه این لحظه. حالا میاد بوز و چی خواستم؟ مردم دو تا چمین معلم جا می‌ندازه به تخصصی دست می‌دیم حال نمی‌کون می‌دونی چرا با این نمیگیری اون نمی‌دونی مثل همون هواپیما پایانه است یعنی ترمینال چی چه جوریه آ یا شید شید شید. نه و اگه فرودگاه می‌ذاشتن شاید ما ازش استفاده می‌کردیم فرودگاه دوست برای بحث تجارت تولید کننده و تاجر نمادهای مختلف داشتن در قرن سیستم میدادی آرام آرام شکل گرفت تولید کننده یه آر می‌زد تاجر یا آر برای چی می‌زدن اول جنسش رو تضمیم می‌کردن نکته دیگه این که پس بعد اون جنس قرش شد توی آب می‌اومدن درش نوردن می‌گفتن این چه تولیکی کرده این نیاز داشت که این دست در قرونه در اروپا هایی که ساخته می‌شد پشتش مهر الله می‌زدند چه بگن این جنسش خوبه چون مسلمان های درست کردن که صادق و سالمن دروخت تو کارشون نیست قشن دو کارشون نیست به مال حلال جدید براشون مهم اهمیت میدن خوش سر رو از چکار این موره اولا هم میده در کتول خوده قرمی ها آمده از خودمون نمیده این گسترش میده شد حقوق معنوی به علایم تجاری مثلا شرکت سانی وقتی اسم سانی رو گذاشت سانی از چکار کر ی پدر سوختگی این چینیارو می‌بینید که نوکیا رو زره چی نوکلا. اون واقعاً سرعته. برای چی؟ برای که اون مدت‌ها زحمت کشید بعد وقت بشه یه چیزو پیدا کرده. تو دره پتاشو می‌خونید. دست شما نکنه. حالا میرسیم به مفهوم نماد. خدمت شما عرض کنم برای انتقال علوم رمزی استفاده شد و هیچ علائم شروع کردن به پیچیده شدن. برای طرح‌نامه‌های خانوادگی استفاده شد، درعلا خصوص در ژاپن. این پرچند نماد خانواده فلان این پرچم نماد خانواده فلان قبیله فلان نسب آل ایل، تبار و فلان غیره برای بحث رونوز در نوشتار که写یدم شبکه های مخفی مثل فری که اینا اومدن و خانقاه سنگی از این سری نمادهای تمامی خودشون بود قرارداد منع اصلا شما هیچی چیز سر در حتی نگاه بکنی بخواد فطری هم نگاه بکنی سخت در چش بخاطر اینا اومدن خیلی عمدن غیر فطری که هیچ کی نمیتونه و نهایتا تبدیل شد به وبسید برای انتقال دانش الان کتابی که شما دارید میخونید مطلبی که من اینجا یادداشت کردم که بتونم پیش خدمت شما از این ارائه بدم برای کی یادم نره برای چی میشم بسارتیکش رو تایپ کردم تو تلفنم برای اینکه راحت اینجا فقط دارم انتقال دانش بحثش اینجا دارم میگم تو پاورپوینت تاربرد های نماد بعد از آخر تون بگیم و. دوستان سعی کنید در نیومد خدمت شما ارزو کنم که سه نوع شناخت ما در دنیا ساری جاریه اول شناخت عقلیه شناخت عقلیه همی دنیا دو دوتا شرط های همین رو میفهمن شناخت عقلی. به خاطر امین عامل اصلی به شکلی بسیاری از نمادها که ریشه عقلانی داشت چی بود؟ هندسه بود هندسه مثلا میدونستید یونانی ها وقتی به راژیکال دور رسیدن اسمش چی گذاشتن؟ شیطان، تو نمیتونستن خلدش باید. افتان میدید، هرکر گفتیم چیه ایتونه پدر سمودوی؟ عجب، یا وقتی اون مصری رو به اون مربع تلاعی رسید. مستقیله تلاعیه در واقع دیگه درسته تو مستقیله. یه نگاش کرد، دید این طولت، اینقدر کمازی ها که کمازی که یه لحظه یه اشترش درسته چند نخوشگیله. اونا مش به معنی سکون داره اثر دایره اثر شکل مربع اثر شیب مثلث من سه تا شکل بکشید دایره مثلث مستطیل مثلا بعد مثلث چهار تا شکل بکشید بزنید جلوی یه نفر هر بگید کدوم یکی از اینا بیشتر دوست دارید هر کدوم انتخاب کرد بیام من میگم روانشناسی باشه الان مثلا مثلا مربع آدمایی که خیلی استقوام فکری فکر می کنم چون چهار تا شکل داره کوپ هم،, هم. محکم خیالش تخت یا آدمای خیلی جید. محکم و قانونی و که واسش دو, دو, دو چار تا چهار تا اینجوری بعد دایره اصلا بحث فرم دا. دایره آدمایی که امنیت گران برای چی شما مرکز دایره که قرار میگیره از تمام جهات چی؟ یک فاصله خیانت تخته اما شما تو مربع درسته تو گوشه ها دور می‌شوی وقتی جای اون اما بغل زنده چی میشه جاش نزدیک میشه چون دوره رو نمی‌بینی چون دوره که خطر رفع این نزدیکی‌ها ریسک خطر خب مستقیماً از راه رو هم نشون میده. یعنی هیچ مسیر آدمی که محک فکر میکن و ادامه مسیررم چون کنه؟ فکر میکنه یات من بحثش ن آوارد بشم وقتی اون جلسه میشه. همه جایی دنیا میفهمند که اثر که شکل دایره دارن همه میفهمند توی بحث اثر گذاری نماز بر جریان و علوم غریبه جلسه بعد انشااءله حتما نام دیران بگم حتما به خاطر اونجا میگییم که مثلا دایره چه اثری همین الان کارپت داره طولوم غریبه دایره یعنی وارد نشد یه نفری که جن جی زتیش می دورش شگاه میکنن و چاقو خ میکشد. یا یعنی دایره مندار که این چقدر شمارز بکن این جابیگر ها استفاده میکن خوششون آتیشه دایره شکل درست میکنن. درسته مسلف نماد تسخیره وارد دایره نن بیان تو اما مثلش بیان تو گیر میفتن بعدب جطلا داره میزنه پدر سوخته. چ می بینید ممنوع از چه شک اصلا ممنوع دایره اصلا کجا اه, گرفته شده یعنی پوشت سر این اعداد این اندازه ها رموزی نبفته است که ما نمیدونیم قافلیم از این ما. اصلا اثر اصلا مستلط اصلا دایره مربع یعنی زمین است. در قوم نماد چه ناسی در قرار دونیم نه زمین فقط تابش نور حقیقت و الهی و از ما بعد و طبیعه بر روی زمین میشه چی؟ نو نقطه بر روی مربع بخوابیات میشه شکل چی؟ حرم یه نقطه چهار تا خط میگیره به گوشه های مربع میشه حرم من بعد بفهم اینا آرتو بتونم آنادیز بکنم اون میشه انحراف در نمادشناسی، شناسی تنرم قاطی به در و دیوار گیر میده متوجه ایست چی, چی دست راست بالا دست شب پایین حقیقت رو میگیره انتقال میده به زمین از سمتی که قلبش میشه داره اینجوری نشون میده منتهاج ما زبان اون طرف رو هم می‌دونیم این بحث زبان مخفی و رمزی صهیونیست‌ها رو هم می‌دونیم می‌دونیم که چرا اینجا به جای کله آدم کله بوز استفاده کرده اینجوری این معنیش فرق می‌کنه زمین تو اساس سیستم بوده باید رو تعریف میشه اینا رو همه رو باز می‌کنیم تا خدمت شما ارز بکنم که فلا ما بریم وارد به بحث کاربردهای نما بشیم. نما اولین کاربردش اینه که گاهن تنها زبان برای انتقال مفاهیمه با هیچ زبان دیگه نمیتونی انتقال بدی زمانی که یه نفر داره گریه می‌کنه. این معنی کردنش برای تمام دنیا آسونه به سادگی محضه یک تصویر یک نگاه لزوم نداره شما بر سوماری صدی می اومدی میگفتی که چی آ اونجا دارن میمیرن میکشن یهو اخبار فرت این چیزه یک تصویر از اون بچه قیافش معنی داره طرف اصلا به هم میری میریخت میرف اونجا توله برید بهش کمک میکنید چی شد؟ یه تصویر گاهن نه که بگم بهتره راهش جدی میگی تنها باشه تنها باشه یه وقت شما میخواد عالم آخرت رو چه جوری نشون بدید توی فیلم ها می بینید که اونجا یه رو یه نورش رو زیاد میکنن بعد مرزها رو کم میکنن درست می می به مهده اصلا کاملا به شما مخلوم انتقال میده به سادگیم یه هنرمند این افضال رو داره در سینما میرد استفاده میکنه هر جیر دیگه به باستیم بشتاسیم ایک بکش جنگل بکشم اونجا شمال اینو دیدم دیدم اینو که داریم زمین داریم شمال هستش بدم پوری بکشه رناتی بکشه بلان اینجوری چیزا یه دایم اینام زیادند علمدون بشه شاید یه خب از بحث این مورد مورد دوم یعنی اصولوشو درام یم خیلیشو قبلا گفتم اون به درتون درگیر کردنش شدید ذهن مخاطب توسط نماد چه قیره نماد این کار انجام نمیده آقا مگه شعر یک مفهوم نداره چرا دیگه شعر چه حرف میزنه ما حال نمی کنم ما شعر بخوری ما حال میکنیم چه اینجا وجود زبانی چی صحبت میکنه کنایه و نماد آدمی پیرچو شد هرس جوان میگردد اسلوب معادله خواب در وقت فهرگاه گران میگردد آدمی پیر شد آخرهای کار هرس جوان می‌گردد خواب در وقت سحرگاه گرامیه راست بوده. اون لامصب و 6:30 تا 8 صبح رفتم ببینید ماجرا رو می‌گی همین فضا رو بکنیم چند وقت پیش افتادم یه شهری برنامه داشتم زمینی داشتم برمیاشتم کله صبح بود خدمت رو بکنم. این بینسو 140 50 تا گفتم بابا آروم گفتم حاش بخوام و ب رو گفت من تایم دارم من کارم میه اینا از سطح شش تا ه نیست ن پلی ها ب شده گفت همشو خوابش میبره حالا این برداشتی که این خواب دروقسه هرگاه گران میگردد شده حالا به گیگاه موقع، نه شدن که رفته گفتیم بابا به جیممه ما رحم همکنه که به پلییس جنیمه میخواد بکنه مچه هست بود وقتی برای عاممر شناسایی مثلا شما یه جبهه جنگ چجوری جبه خودی رو از ما خودی تشخیص میدیم از چه شیوه‌ایشون؟ اصلاً نمی‌دونی چجوری تو؟ اونجای بچه کجای آ؟ یه وقت مثلا اینه که یک از هموطنان ترکمن ما با مثلا اقوام شرقی هم کلی شری به هم دارن. بزنید بکشی بکوشیشون. یا نه اون مثلا اینکه جنگ با چین باشه، یونیفرمشون نه هیچ نشان داره، یونیفورم میشه. یونیفورمش نشانهشه. وقتی میخواد اصیل بشه چیکار میکنه؟ فیلمش در میاره. هر میره. هرینا نماد همینو مفهومه. عامل شناسایی. شما برید یه قدمی قدیمی میبینید روی بخش از قبرستون‌ها یه چیزی گذاشته میشه از سخون ماهی دو طرفش سیخ سیخ داره. اون چیه؟ این شمع از آهن. های چوبی نمیدونم شما دیدید یا نه، بود تا 20 سال پیش هم گیر میومد. شونه های چوبی بود، زنونه بود. این نشونه زن افسر. زن با چیشون که این قبل متنق به یه خانومه با یه شونه که به سنگ قبلش میکشدن هر دوز هم که هموزه هست بری تو قبل سنگ قبل روستاها پره خیلی بسیاره هنوزم در برخی از روستاهای که سنگی قبل رو دستی میکنن این اماده چکار میکنن؟ استفاده میکنن شما سه این شما میتونی بکنی؟ خیلی ساده است رقشی برای اعلام خکره در این صحبت است؟ شما کل كل دونه چرا قرمز معنی داره حالا فرض کنی ميخواست مترجم بذاريد رو هر چرا قرمز باشه بلندگو میشه يا بابای هم ميشه آروم اینجا انجليسه انجا ساب يعني یعنی فلان قدره يعني فلان نميشه که یه نماد بسيشي راحت همه منظورتون ميفهمند بسيار بچه سريع اين سوال بسیار بسیار بيسيار دو ساعت ميخواد بايد صحبت بکنی که اتفاقا با يك نماتون انتقال مثال بر شما بزنم شما دارید می‌بینید که یک نفر دست به سینه داره نماز می‌خونه، میشه نماز خونه. بدون اینکه اصلا شما با این بابا صحبت بکنی، میشه دو ساعت در موردش صحبت کرد. یک چرا خود بابا حرف نشدیم. یکی اینا اهل سنتن، اینا به این اعتقاد دارن، و اون اعتقاد ندارن، اینو فلانن. شما می‌بینی این نفر دستش رو خاطر نماز می‌خونه. می‌شینیم یه این یا شیعه است یا سنیه، مالکیه. چون اهل سنت مالکی هم دستش رو مين می‌زنه شعر. بعد نگاه میکنه به زمین ببینید داره یا نداره هیچی است نه این مالکیه بعد شروع میکنه شب و بست دادن یه نماز یه نماز، دو ساعت به ساعت, ساعت یا طرف صدری داره نماز دستش این وحباقیه آه در رو در با که الان تو رو گزاره بهش داره میبینه برنامه داریم این برنامه داریم این مثل موشه گربه بود یا رو م این که دره از طرف داره میریم یا خیلی هفته اینو رو کشم جنات تجریم تحت الانها و خالدی نفیه و عبدا. سه تا بکشم و پایین ماهینوش رو بازم میریم از سه تا, تا تا هفته داره دید خلاص. خدمت شما از بکنم که بله هر به جای رسید این هزینه بودن و سریع بودن و تأثیر بسیار زیاد گذاشتن تأثیر بسیار بسیار زیاد گذاشتن تاکید میکنم باز هم میگم چه پیشنهاد اسپرانتوی تصویری داده شد گفتن بیان یک زبان بینرمدلیه تصویر است در رمات ها اول جلسه گفتم وقت تصویر بسیار جدیش منو اصلا تصویری بیشتر دارد در مورد وقت آبایی در مورد زمان زبان کل نصوبت کردم و گفتم همون زبان هم ماهیت تصویری بینام بکنی که شما خوب درک می پیشنهاد داده شد ببینید میخواستم فاتحه جمهور اسلامه رو بخ یه سنگ صورت سرایی ها فوت همون مرحبه فوتبال اون است. یه بار اول اومد و برگشت با دور اومد دیگه. میرونی چی شد درگشت؟ رفتن سنگ ساله سرایی رو بشته شده دن. های برد بخص بود. این که من نبیره. حالا بیا برو سدی بهش کتاب بده بخون. این دیوانم منم قبل همجرم کنم. نه بابان دیستش به خدا اینجه خبر نیست از اونجه بیا برو بیا آوردن با بعد بعد چوت عیس از دوردن فکر کنم اینجه در این رو بفکر بگیر نیگاه کرد و رب بام تهران رو بشنشون بدن و گفت نه خوب بله بله بریم اینجا خوبه قرار داداشون هم خوبه منطبت از جریان اخیر سفرم بند خدا بیت هستم خود در جرد اص نبدیم برشن نمادین داریم سفرمان خدمت شما ارز بکنم که یه ماجره جالب یا این تعریف بکنم از با دیگه گفتم پس مقید ماجره هم چی بوده جالب بوده جالب دیگه یه همسایی داشتیم یه خانه بود بسیار آدم خلاقی بود واقعا هنرمند خلاق خلطتی خلاق ها هنرمنده هر اگه مکانیک خلاقیت این هنر بینه تو کارش این بی بود شماره ها رو تصویری میشناختم ما به برادرمون یهو میگوس زد خیلی آروم بعد چه بود این برادر ما فرا کرد ببین که رو راند میوسه دربره این فرا کرد <تصفح> بعد راند میوس اومد دم در آقا چی بود ما دنبال یه بچی زدیم بهش چیزی نش برای ما شر نشه بعد گفتیم سالمی فلانی چیزی گفت آروم افت زدم آروم افتم تو جو دند رقم بشه من نریدن فقط تعادلم از دست دادم بعدا برای خود شمارهشو شماره جایی کاری ندارم بعد رئیسم اومد دم در مونتونتون همه خانومه گفت بیا نگفت که پلاکش کشیده بود پلاکو ننوشته بود و پلاکو کشیده بود عشان نخت نقط... پرچ میشه پلاک دو تا پرسون پرچار هم مختصمی بود هنوز که هنوز خدا جواب یادمه پلاک مال اهواز بود چرا چون چشیدن دفتر چه تلفن این خانومه میدیدی کار بود ای هر جا لب هست می اولشون نشون می‌نوردیم خدا هر جا فکرش کرد صفحه اولش یه چلنگی شده بود دوتا گوش پزشته بود چار لحمو دوتا انجام داد تو انجام تابو شرایط که تا اینکه گو داداش همیچه چاله شمارش بعد این شماره را عادتش رو شکلش میدید دو روزی تو می‌گشت پیدا می‌کرد نه باشی فعلا مادی بود تو برای یه روانی سر ترک کشام می‌تلفن چشیده بود. چی وزنه میخونه بعد ببینیدام چی یه جا تیر و کشیده بود و گفتن این چیه گفت خونه خواهرام اینا چند وقت پیش تیر و افتاد خب چند آسیب دیدن بعد من این ماجرا برام برد و هایلایت شده من این اینو مثلا اینو کشیدم. خیلی جنجالی بود یه عامل انتقال مفهومه بریم یه کده رمزی و خودش طرف گذاشته داره استفاده میکنه خب کاربورد های مذهبیشو مطلقا وارد نمیشم جلسه آخرمونه جلسه آخر آخرمون من خب کی کار بکنیم ما جوری استفاده کنیم اونجا میام بهتون میگم که نمادگیراترین تفکر بر روی کره زمین اول تشعیع بعد سهنونیزمه نمادگیراترین تا مسترالفتن به طرف نمادیم جدی میام بگم سنگی دستوی نماد رو به تا نماز خوندنش نمیدونم چه اصلا ماجره ها داره اونا دردی باز. اعداد خودمونو باز میکنم که چارده چیه دوازده چیه هفت چیه هفتاد چیه سرد چیه چهر چیه اینو برای چی برای متقدست دارن حالا اونجا که سواده من حقیر میکشه اما میخوام برم سراغ یه بخت بسیار بسیار کلیدی با عنوان ارند ارند یعنی هم بذاره من یه خیلی ساده خیل تحریکم دقیق نیست اما خیلی ساده است انتقال بدا میکنم تمام مفهوم رو یه جا جمع کنی توی شیفتی توی یه نمارت تمام مفهوم بزرگتن ببین ما یه مقه هست نگاه کنیم بزین جورو گرم ما یه مقه هستش از خدمت رو مست یه گذاره چند تا چیز زهن چند تو زهن رو چند تا فابشتور تو زهن رو خب مثلا میگیم که آقای اکس درس کنن تو زهن رو بخورده مغروره بخورده بره اما میشه اصله میده چی میگه تو توی اون کدومه خیلی دیگه اصل طرف با اون میشه دسی. اون میشه برند آدم مثلا من گفتم رامسر یک روح سبز جبیش هیچ نساختن اجازه درسته این شهره زیباس واقعا در فاطره رو همه جا خوندن همه جا اینجا خونده اینج این کوه یوهوی اونجا زده بسید مورد سبز سبز جزو ساخت حالا بگیم با هم برس من اول میگم اولی چیزی که تو ذهن شما آمد بید. متعجی شده مثل سندگی داد همین برس ماست زنجان نباید نروسی چاوو. چرا شد چاوو؟ برای اینکه واقعا چاوو تو زنی ماست در حالی که بزرگترین اجتماع محرم شهر شهره چرا اینکه زنی چون زنجانی ها بلد نبودن این رو منطقه بودن و همه چی شد؟ چقدر مهمه بحث از برند دارم میرم تو مفهوم نماد و حتی برند رو میتونیم مفهوم نمادم ترجمه بکنیم میتونیم آن روشو دیگم داره من چی تو زهنم میاد؟ میگن آقای فلانی چی تو زهنم میاد؟ این خیلی بگمیده چرا اون تو زهنم نمید؟ برای معرفیشون چاخر استفاده شدن کیرمان سوالات سرونج عجب عجب ببین سوفیا ایشی دیوونه شی چند تا سوال بکنم که این بحث رو آرمانی پیش بگیریم بیا که امروز آقا این فایل ما رو باز میکنی آیه اومید برادر شب تا سوال بکنم که که فولدر کشورها رو باز کن شما دارید الان؟ اون، تو رو خب منم خودم این اون فایل مرد چه نوشته خدمت شما عرض بکنم که ایرانی‌ها ایرانیان سهمی فایل باز کن. ما می ایرانیان. کن کن. ایرانیان؟ رو باز کنم. من تصویر وای ایرانیان زومش کن درشون قشنگه فورت، اگه می‌تونید نمی‌تونم چرا ایرانی‌ها؟ ببینون که مبدا دنیا دنبالش چیه؟ وای ایرانیان چه زنای، ایرانی‌ها خوشگله. وای وای ایرانیان سو وزیر شد عجب یعنی نگاه اونها به ما زنان ایرانی اولین گذاره فکری شونه. خود ایرانی هم واسه من دلیلش اگه مثلا روی سومی رو الانم حساب بزنیم دادن که بعدا تو اینترنت بدن. وقتی مثلا باز میشه شما اینو با ایرانون و چی؟ با ایرانیان ملت بعد از چاروم. آرک ها؟ چرا پنجو. چرا زنه ایرانی چادو سرشون استفاده میکنه استفاده میکنن. برای اینا سواله این برای اینا سواله اگر من مسئول جمهوری اسلامی بفهمم میرم پاسوخه رو که در اولین سرچ و دومین سرچ پید میذارم که اینترنت تا خودم رو معرفی کنم بگم این حجابی که این داره استفاده میکنه اینه نه این که شما الان میره میذاری میبینیم آه یه چیز چرا ایرانی ها سفیدن؟ ایرانی ها مارد برای سواله میدونی چرا چون امریکایی ها کار بگم نامردانه انجام دادن عرب ها با شمشیر شطور و بیابان پیوند زدن الان تا به اروپای میگه عرب یاده لورنس عربستان میفته، چه دیگه دیگه دیگه ساخته پیدا میافته همدنی کار کردن بعدش ما رو عرب زدن هلیم با چی؟ همون آب داره به با پس آب آسه اعتباد داره, اعتباد داره. ببین دنیای مفهوم امنیت یک کشور رو کامن نمیفهمنیم کسی که کشور ما متوجه نیستن نمیفهمنیم گیرم میدم خیلی درد داره خودش داره. چرا ایرانی ها کلن خوش گلن ایرانی سو so beautiful ایرانی ها آر کا دنسل پرشیین چرا ایرانی به خوش میگن کاپسی سوال داره برشو. کی باید جواب اینو بده؟ اگر ایرانی یک سال نداری خب ایرانی و جواب بدن ایرانی جواب میده چون اصلا همچ چیز رو ننفس نفهمیده اون مسئول فرهنگی مادر چشور. متوجه نیست بابا دار و نداره تو رو دارن با زنت میشنن خیلی حرفه بیا براش سوال کن یه چیز خوشگل به شما بگم شاه کاری که میتونه اینو استفاده کنه نمیتونه. بندش آقا مسلمان واسه بعدیش. اولش why muslim girls are so beautiful. چرا دختران مسلمان اینقدر زیبانن؟ عجب. بنو میشتید تو گوگل بنو میشتید قراتون چرا این سواله؟ اینو کی؟ اینو لینکش اون سوالی که در چی اما جالب بدونید در مورد باقی کشورها چه سالی تو نمیشه. شما بیر دین بحث چیه؟ بحث تمدن و رفتار اسلامی دیگه. بحث تمدن و رفتار اسلامی به چه لزمی به شدت اثر داره. به خاطر همین مسلمانان جز معدود اقوامی هستن که با پیر شدن خوشیتر میشن. شما برخی از ها هستن هر چی پیر میشن اصلا نمی تسه نگاه به میره توهین نمی کنه، آخه حقیقتو دیگه خب زن مسلمان به خاطر اینکه روی خیلی از مسائل رو حساسی، یه سری آداب، بحث قصلهایی که داره، بحث مراقبت‌هایی مراقب که باید از خودش بکنه، یه مراقبت از روی رفتار جنسییش، باشه که من رفتاره داشته بشه، نداشته بشه، طرزش اینه، نخوره، نخوره، اینا همش روش داره اثر می‌سازه. بعد می‌بینی مثلا نگاه به مسلمونا چیه؟ وای ما مسلمون بمون یه حجاب، چرا اینا خدمتشون از می‌کنن حجاب؟ چرا مسلمانان اونم پوشش دارن؟ چرا خیلی یه سوال برایشون وای مسلم دونت ایت پاپ، پاپ روز نمیخورن، پچیه گوشت خوک سوال داره، من اومدم براش بذارم چون اسلام باعث میشود این زیبا بشه، که طرف عشق کنه میگه بابا دمش که من برم نمیدین چیه، من براش گذاشتم گوشت خوک نمیخوریم به خاطر اینکه اثبات شده فلان انگل رو داره فلان فلان، بقال علمش خود شما مقاله علمیشو خودت شما اروپایی نوشتی؟ نه، ننوشتم دیگه، این سوال میپرسین میفتی تو دام کی؟ خود اونا. این بحث نماد بحث مفهوم نماد بسیار جدیسینا متوجه نیستیم به خودمون. چرا مسلمان هست؟ نفرت نفرد دارن هست. بعدیش چرا مسلمون ها رمزان رو جشن میگیرن؟ رمضان همین رمزان. مورمزان برای سوال شده چرا من نفرد برای خودم جواب بشه بدم؟ برای این بچه برای این کسی که داره میگرده دنبال من برده هایلای ترمانه میتونم شواب بدم. چرا مردان مسلمان پوشت خوش نمیخورن؟ چرا هجاب استفاده میکنن؟ برگرد برو روی ایران دومی. همی وای ایران؟ چرا ایران؟ بیانیم آقا از کشور ما میگه؟ ایران از چی رفتن ایران؟ وای ایران هیت اسرائیل. اولین گزارش ایرانیا از اسرائیل چیان؟ متفرن. جواب گوش برای که اینقدر بچه‌می‌کوشه برای که فلان میکنه برای اینکه بهمان میکنه حالا اسرائیل هم گذاشتم که لینک بهتون بدم. دیدی دختر ایرانی با دختر مسلمان چجوری لینک دادم؟ اسام گذاشتم اونجا اسرائیل هم گذاشتم لینک شده. این یادتون بمونه. معجزه ایرانیا از اسرائیل بیزارن. چرا ایرانیا از امریکا بیزارن؟ چرا ایرانیا بیزارن؟ تهدید. چرا لا تهدید نیستن. سوال بعد چرا ایرانی ها؟ تحبید هم اصلا ببین برزشون میگه اینا بروقتا چی که تحبید هم بیدید چی بینیم برچی تحبید هم برچی تحبید نیستن سآل بعد تحبیدی کی من حال بکنه من. من من من من ایرانی من اگه یه مسئولی بودم اینجا یه گروه 100 نفره میذاشتم با بردی یه دنو تا به خدا را سم نیست خیلی دید. بسیاری خزینهای نظام جمع گیری میکرد چیکار کار میکردم؟ میگفتم بشیری تو اینترین در مورد این فقط مقاله بذارید من اگر میفهمیدم پایان نامه دانشیان و اجتماعی رو صحب میدادم به چی؟ به فاسوخهای برای اینها که به نفت باشه چرا ایرانیان نباید تصدیل هاتف داشته باشن؟ مردم دنیا دارم به نفت شما سوال میپسن چرا نباید داشته باشن؟ شد نفع. نه باید داشته بشه مگه شما که یعنی واسه خوش سوال بپرسید میگه من آمریکا دارم اسرائیلم داره فرانسه هم داره هم داره, هم داره. اصلا این چرا نمیشه مگه چی ام اگه به استفاده کردن تو ذهنش نیاد اگه به استفاده کردن که آمریکا استفاده کرده اگه به خطرناک بودن خطرناک ترین نقطه کره زمین نیروگاه اتمی دیوانه ترش اون بعدش اونم منفجر بشه کره زمین مدار خارج بشه اصلا اولش من شده سوال برای این پیش اومده از این بهترتون چبره بهش منو بشیانی ببینید بحث نماز و مخول نماز چهقدر اهمییت داره هر که پشتیده داره میشه چرا ایرانی از عربستان سعودی از عربای سعودی بیزاره؟ این میدونی سوال قبلا نبود اخیرا اومده از کی و بحث چهجوره سفیر عربستان اینو میگن ای مگه نه مصمنیشه چرا از اینا ویزا حالا ببین طرف چی جدی میتونه راه بندازه اینجا چهار تا مقاله که تو اولین سرچ شه چرا ایرانیا بمب اتم می‌خوان نیاز دارن میخوان به دست بیارن چرا ایرانیا خدمت اون اسرائیل نابود بشه چرا ایرانیا می‌خواستان ترور کنند سفیر عربستان تو کیه چرا ایرانیا نباید جنگ نمی‌تونن اونجا گفت شوت نات جنگ کن کنات چرا نمو چند داشته باشن می‌بینید خیلی از سوالات به نفع ماست بابا اینا بچه‌ها درست کنن. من برو صدر اسرائیل واسه من. به مردم درم اسرائیل چی میگم کنم؟ یه خورده زومش هم بکنید. آه اصلا ولی حالا چرا اسرائیل نباید چی؟ خارج بشه؟ مردم این یه سوالشینه. میشه کوروز دارم افتو تو گرفتم. در چه خارج میشن؟ چرا اسرائیل باید خارج بشه؟ مثل تحلیل نیست و تأیید هست. یعنی یک گشت خاکستری داری اینجا باید بحث جا بندازید. بودو کسی که میخوای جنگ نرم بکنی، جنگ فرهنگی بکنی، عملیات روانی به جنگی، بودو فرصت از دست نده که همه خاکستری میتونی گرم بدی این سمت که خودشون به نران اسفایل آخر کنن اصلا به تو نکشه، پشتی رو بقل لوا کن. نبی زدیم، نبایه، انگور خوردیم تو سایه از درمان مسئله چیگه نیداریم، نشدید چرا؟ اینجا نگاه کنیم چرا اسرائیل اسرائیللیا نمیخوان صلح وقر بشه؟ خیلی جالبه. یعنی مردم دنیا فهمیدن با اینا صلح نداند. اون سواتی در مورد ایرانی ریزارن از اسرائیلو، بذار اینجا کنار هم دیگه؟ یعنی فرزارارت که بخوام به دست بگیریم بیچار رو بتون بکنیم. چی باید این کار روکنه؟ اون کسی که اینقدر ریز بشین رو بکشه مییرون مثل پزش. حالا ما کشیدیم بیرون بخرم مییرون چی باید کار رو انجام بده اونی چه بکن یه سنگ کسالاسرالی مین. اونی چی بتونه یه هنرمنده یه اثر هنری اصلا دعون میکنه چه ست تا کتابی هم چه اثری نداره مخورد چرا اسرائیلی ها خدمت شما از بکنم که حقن یا حق نیستن چرا اسرائیلی ها فلسطیما هم مبارزه دارن چرا اسرائیلی خدمت رو باز میکنم فلسطیجنه ارزش عرضی سرزننه نیستن و غیره و غیره و غیره همین رو نگاه میکنیم عموم مثال یا ببینید یا عموماً خاکستری قش یا به سمته که ما تصفیح کنیم درد نشده من ایران خوندم ایرانیان خوندم مسلمانان رو نخوندم نگاه کنید چرا مسلمان ها مسلمان ها رو باز کنید ایشه خوشنه چرا مسلمان ها و اصلا خطر نمی کنه برای همین سوال جواب بدید میدونید دیگه احتمال اینکه یک مرد مسلمان ایید بگیری یک دهم یک مرد مسیحی است بحث خطر نکردن یک دهم ده میکنه خطر ابتلا به ایید رو میدون په بود اونو بهداشت میشه پزشک میشه براش بزار تا بفهمه میگه بابا عجب این متفرقی یک اروپایی که میاد سوال میپرسه وقتی وارد میشه اولی حرفی که برمیگرده به شما میزنه میگه که بابا عجب دینی دارید شما میگم چرا میگه تو دین شما گفتن قربانی میکنید اول رو بزن تا اینجا اما عصبها رو نزن توی یه خون یه ماده اسم هم این چیکار میکنه خونو فاسد میکنه شما رگو میزنی اما عصبو نمیزنی که قلب چیکار کنه پمپاش کنه خونو کلا خارج میکنه چون یار بابا اینا کجا فهمیده بود من کنش ها میراه نه هش سوال داره چرا مسلمان از امریکا بیزارن؟ چرا مسلمان نمیدونم چه بله سریع بودن به منی چیه؟ باید برید روز افتن باری چه باری؟ درسته اینو در مورد خدمت شما ارز بکنم مسیحی ها میپرسن خیستینز؟ خدمت شما ارز بکنم چرا؟ مثلا نمیدونم این خدمه جالبیه باز وقت هجاب شما دارید باز وقت نفرت از امریکا رو دارید. بعد چرا مسترده کلن بدم؟ اومده گذینه چندان قرار گرفته. چرا رو به مکه نماز نخونن؟ بیا اینو بست کن. بابا این گلوگول قرمز، یک بست کلمی که حد دقیق این گلوگول قرمز هموگلوبین داره. هموگلوبین آهن داره. آهن دو قطبی داره. یعنی اینا اونا رو عامل میکنه وقتی شما به سمت مرکز مغناطیسی می نماز می‌خونید یا می‌خوابید یا هر کاری انجام میدید اینه این, این هموگلوبینه که روی خولوبگیه متزه اینه رانندگی بین خطوط میشه اینا به همدیگه نمیخورن سری گردش خونت آسون میشه برادر اروپایی بعضی برا در غربش امتحان داری بیا یه شب رو به قبله بخواب یه شب نخواب یه شب بخواب یه شب نخواب بلاهایی که تو خواب سرت اومده رو ببین چیه می‌بینی شبات رو به قلبه می‌خواد اسف درد نمیگیری صبح سر هالی فنا فلات برای خودش بابا ملنگ شده مصالمه شده تو هیچ کار نمی‌خواد بکنی ما باید بفهمیم نماد من چیه امروز زنی یکی از شرکت‌های خود خرده‌سازی ما بزرگترین دسته عزاداری که با همرا نگی قرار می‌ذارم یه فناجا راه بیفتنا در کل کشور داره هیچ کس نمی روز عاشورا یهوی ترتیب میکنن کار خونه رو 20000 نفر میاد توی دست سازه ها همه رنگی لباسوشن صحنه عظیم من اونجا سخنرانی داشتم عکساشو دیدم باورم نمیشه بعد با خودم گفتم چرا این رو تبدیل نکردید به مفهوم نمادتون حتی اگه مسئولین تبلیغات شما میفهمیدند میتونستید کاری بکنید که از این به مردم هر دفعه عزاداری میبینن کل محرم تبلیغات شما باشه کل محرم صفر تبلیغات شماس اگه بفهمید بحث تبلیغات استفاده از نماد که دنیایی داره بسید رو بسید رو خدمت شما ارز بکنم مسیحی ها رو ببینید چرا مسیحی ها تو جشن هالوین رو همون جشن شیط و بسید دوست ندارن بعد خدمت شما ارز بکنم که یک شنبه پرسیده باز هالوین رو پرسیده روزه رو پرسیده چرا مسیحی ها اسرائی رو حمایت بکنند؟ برای این سواله؟ میگه بابا این چی داره می این مسیحی چرا داره از میاد میکنه؟ یه بار هم نپرسیده بعد وقت دو بار پرسیده این بار با قید باید چرا باید مسیحی ها از اسرائیل ما بکنن جواب ششه ها ایوننجلیس مااش توضیح بده که در اینا رو در رو بردیم مصون نهما رو درش کن چرا مسیر ها نباید شان فلان ب چی بوده؟ همکنش بری باز دور اضافبطتر بشه و غییر چرا مسسییر خو خوک می اینجا ماجه چی شد؟ پسنه عکسونه، یعنی از اون طرف که این ور میزنی یا رو از این طرف هم میتونه فضل باز درست بکنی اصلا یا بیستم تو شما اون تاسفه هایی بریم نگاه به جوز چه؟ چرا یهودو دمانشون درازه؟ اکس که گذاشتن الان اینجا باز نشده یا مثلا اینجا این کاری کار شما خب؟ صرف کرایی ما ننشست به خودیانه همینا میگه یهو باقت البته از خودی نرسیده بس که فرض استفاده, استفاده کردم یه خورده نتایج با هم دیگه خیلی کمه توی تعدادش ها مثلا فکر کنم انجیل ایکسپلور 4 تا نشه ارای میدی بیشتر مییره خدمت شما عرض چرا یهودی بدن سوال دومه مثلا چند اون بود پای چرا مسیو یهودیا مسیو قبول نداره هیچ مشکلی با جیسس ندار با حضرت مسیح با عیسی جیسس اونسش یونانی رردار جی تو زبان عربی و فارسی میشه یه. مثل جوردان میشه اردن جیسا میشه ایسا چرا ایسا رو قبول دارم؟ چرا اینا کشت خوش نمیخونم؟ چرا لیبرال چرا با سربتمند هم؟ سؤالات رو میبینی؟ جواب چرا همینقدر سربتمندشون خدا و کیه همین رو به جواب بدی توی این بحث با نسید پکندی؟ من نمیام من دیگه بحثی میکنم و خب یهودیان خداپرست که پیروان مکتب پیامرانش میخواستن و روز جزاروغه بردارن با اینو کار ندارن نه خوشش دارن خوب حل در چرا اینا معمولا به کیا را میدن؟ به دموکرات ها چرا؟ این چیزه باشی میشه؟ آخرین مورد چرا یهودیان دوشت و یهودیاتو به هم نمیخورن شما میدین این حکر در اسلام هم وجود داره در وقت بهتاشتیست کاملا خب من این مفهوم نماد را ببینم چی شد عزیزان شما بگید چند خانه خدا را باز بکنید اکسشو شو. اکس تو باز کنید. برای از آن مفهوم نماد بسازه حواست باشه آگیرافیست هنر من چیکار کرده میاد در فیلم انیمیشن با فروش بسیار فیلم انیمیشن نه که کارتون باشه یعنی از جلبایی ویژی که به نه وقتن استفاده شده از بخواب کردم انیمیشن درست استفاده ناشد یک ساختمان شیطان معرفی میکنه چندیم سال پیش جا میدازه بعد بالا سر خونه کبست ساختمانه ساخته میشه اجب کجا چه کی و کجا چه برنامه داشته چی رو زده محبوم نماد ساخت میدینم که یعنی یه جا میگن مکش چی یه جا من میگم ایران چی آدم بیاد یه جا میگم اسرائیل چی آدم بیاد رو اینا دارن کار میکنن اساسی جلسه ای من باز میکنم موارد فیلم ها رو میگم اکثار تو برد پرشخان کرد انشالله مبارد متعدد ریز میشیم مصاب بهتونش رو میدم همیتون که این جلسه بیشتر تئوری بود ببینید چقدر شمی جان لخته شدی ساختمان شیطان ساختمان توحید جالب دیگه اصلا ش این نواری ساخته می شود اکسه بعدی نه شما عکستون تو جا به جا رو بنده. یه دیگه بدید خب همین خوب نگاه کنید آیا برادر شما اثری از چه ابنون داری حبه قنده پیشی درخته این آیا کچوله بمین به منار است خب پس بس پسا شما میره اونجا ازمت از و عباحت شما رو میگیره. الان چیزی که مکه رفتن همین الان خانومی از جا تماس کرد کفتش که من روکنه یعنی رو چرخیدم کنن خدا یادم رفت. ساختونه رو درم بودم بعد فیلم میسازه. ترانس فور نیست. یکی باید بریم کیوب آف لایت رو به دست بیاریم. کیوب یعنی چی؟ کربه. کربه انرژی. گربه انرژی. آقا جیدی در این چاهک آبو باز میکنم. چی این بری میشه خیلی؟ عمومه این بری میشه. من تا الان یک بار رشده برم این اما عموماً این طرفی میشن چرا ما دوری این به اینجوری میشن نمیدونم متوجه نیستم چیه به چیه چه چی اتفاق بودم اونجا چرا هر کی میره اونجا یه جور دیگه میشه ریستیت میشه در میگرده اومد که شعبه رو پوگند یه ساختمون ساخت این شد نماد این از نماد بودن از بین برد چی کار کرد زمانی که میخواست شرکت اپل یک ساختمون مقابل ساختمون خودش بسازه و تبدیل شد به یه بار که مشروب اونجا سرگ میشد اون بار رو به شکل چی ساخت؟ کربه وقتی اونو ساخت از این زد از این برم یه ساختم نماد نمادتو میزنه برای زدن خود شما باید ش... برای زدن شما باید, شما باید فکر شما رو زد برای زدن فکر شما تفکر شما در یک نماد خلاصه شده اونو اول باید زد اینا نمی فهمند که تو چه جنگ قرار داریم ما جنگ جنگ به خود جنگ فرهنگی و جنگ مخواهی و جنگ نماد هاست صحیح متوجه نیست طرف توی این با آقایی خواهبا از کربه اینو ببندید فردر برگردید فردر آنالیس رو باز کنید اینش توضیح دادم X1 رو باز بکنید اول تام آوبریس مفصلا توضیح خواهم داد حسابی و تخصصی خب کار ندارم ببینید این نمادی که در مصر باستان استفاده میشده نماد خدای فروس بوده بعدا نمادی شیطانی پنداشته شد همون بله آوبریس از بر اوس گرفته شده کلمات کاملا مشابه هم دیگه است کاری ندارم بریم تصویر بعدی با من یه چیزی با من پیش برو خدا خیلی بده این آوبریسی که توی کجا بود در مصر شهر اسکندریه بود امریکایی اینو با این کشتی این تصویر بعدی میگم با این چشمی دوزری گرفتید اونجا چشمی هست با در خدمت شما عرض بکنم که با این چشمی انتقالش دادن چشمی بدنشو رو شکاف دادن دادن تو بدنه این چشمی چوبی رو تخته زدن گیر زدن بردنش دیگه چقدرش نه داشت از اوجونس اصلی تصویر فانتانو معروف ایتالیایی 1512و اشتباه نکردم میلادی ورداش تیکه پاره های اوبلیسک رو اصلا هم که بعد از مصر هم یه دونه به دستور جناب پاپ یه نماد شیطانی رو اعلام کردن عجب خود مسیحیایی که اوبلیسکا رو شکسته بودن این فیلم هایی که این فیلمایی که مسیحیت میاد قلبه میکنه در اروپا قدرت رو به دست میگیره نشون میده که چجوری میذارن مجسمه های یونانیا و رومیا رو خراب میکنن اولین چیزی که خراب میکنن اوبلیسک رو خراب میکنن چون اوبلیسک نماد شیطان با نماد روم شده بود که شکسته شعار مدبر روم بود رو دیواره با زمان آبلیسک شکسته, شکسته، یعنی ما شما سرنگون سرمیبون با همین جناب پاپ یه های اومد این رو علاقش کتب عجب خدا نما شکل کنه به بعدی در فرانسه بعدی بعدی روبروی رو. با چی کن نه میلوست همه خوبای رو بریم واتیکانا بعدی فلهیه دیگه بپذارید بعدی هم ترکیه عجب من یه شاجم داده تموم میشه بعدی دلار آمریکا سال 2019 قرار نخش ببنده ترمشون خودشو گذاشتم عجب ببینید آرومان دیگه یک خط فکر اون بعدی تنها جایی که به آبلیست توحین میشد در کل دنیا، دیده همه جا مقدس بود کل دنیا یک آبلیست، خط آبلیست رو به شما مسلمان اینو نشون میدادن اینجوری میکردن متن نواد شده بود شرطی شده بود برای شما اینو میدیدین یعنی سنگ یه صلی بزن حالا بعدش کارش کنه به تفسیر بعدی من دارش دیوار ساختم محمود محمود داره میکشه یه دیگه اینو دیدی یاد سنگ زدن نیفت یاد میدان بزرگ پولیس میفت یاده اون عظمت در مقابل کنگره میافت کنگره امریکا تو چرا نمیخواد فروش بدی دیوید جنگ کجاست جنگ در زدن مفهوم نمادها و برندهاست و نمادهاست و هاست و هاست, هاست, هاست. هرچند شمایل رو زدن خیلی سخته اما اینا موفق شدن حتی شمایل رو هم بزنانون گفت بس جلسه بعد من اینجا بنویسم یادم نرش شمایل رو توضیح بدم شما فکر کنم به تفصيل وقتی الان واسه شما دیوار توقف شد نه اصلا ده سال دیگه کلا از چی میشه حاک میشه این نصف فقط کافی عوض میشه از در بعدی این هم هوایشی که میدین خرابش نکردن دورش نکرد کردن گارد برش ساختن محافظ برش گذاشتن خب ببندید تاهای عرضی آقا ما هرچی میبادیم داد میزدیم بابا داره مفهوم نماد میزنه خب بابا نه مفهوم میفهمه چیه نه نماد میفهمه چیه من چی به این بگم کنم هیچی رو نمیفهمه شما با یه نفری که خودش یا با تجاوز زدن یا واقعا جهل داره گیر کردی نمیتونیم حرفت اثبات کنیم تنها کاری که به دستمون اومد اینه چیکار کردیم یک استراتژی با اونونس سزوژی سی نیرو پیاده کردیم بعد یه مردومی رو بهش میگن یه جا شده اون سر ندارم برام اونجا میرن چیکار میکنن میگن اونجا که دزدی شده دارن به هر نفر یه موبایل مفتی میدن آقا بله میگن می گوزه میتونیم اونجا میرن موبایل بگیرن میبینن موبایل نیست بعد دز میگیرن ما هر کاری که دیدیم متوجه است چه بلایی سر خانه خدا داره میاد محفوبون خدا رو داره نوزد کنن شیطان دارن جا میندازن شیطان رو نما تقدس دارن بهش چیکار چی باید کرد؟ بگو تنها جایی که توحید داره مانده تمام دوله از فریاد توحید نمونده زدن و واتیکان رو سال غرف زدن چیکار کار بگو گفتم آقا بیویم حالا که مگه نمیان حرم و وضو حجی فقرا بریم تو صحر رضوی ما به آوایش بسازیم راحت اونجا سنگ میزنم اینجا مصنگ بزنیم. بزنی. اینو که گفتیم چی شد همه دانشجو فلان شروع کردن از دفتر مراجع رفتن گره چی میگن استفاده کردن و سوال پرسیدن و فلان اینجا شده ها جمع شد این هواسا جمع شدن نتیجه چی شد الحمدلله تارایی زدون صداش بعدن در خاطرمه یه موقعی دست کوچه چموتت، اونم تو آره. با خب چیکار داره میکنه عزیزم؟ اینو کجا دارم چموتچی میزنم اینجا صدا نداره گفت فردا میشم، دو سه تا منم خبر نداری عزیزم. اینو دادار دودورای ما سر صدا کردن ما به حمدالله میگم تا بشنون. ده برابر این زیرپوستی کار شده. یعنی یه چیزای یهویی اتفاقی خاطر افتاد منبر و مساج بحثش یه حرفی جو دیدم مردم مردم وزغاتی که میزن تو یه یه که دورون باز آتیش بدم گفتم تو آتیش بدهیم یا تنظیمات تا تنظیم میکنیم حالا پچ آمریکایی‌ها آتیش باید آتیش بده. این دیسی هم آتیش شه خرج انگار چهار تا جعبه میز رو هم یه کاهیه مقوایی آجر می‌کشه روش آتیش بده آها فکر میکردم مثلا اینجوری از هشتاد و چهار شهر با من تماس گرفته این روش شما عکسش شما، بعد 13 آبان دیگه من نگفته بودم نه دیدم او به آویش درست کردن این مجسمه آزادی هم بحثن بدهش تایید شد. آتشش خب، دیدن گرفت سنت شد. یعنی به خدا نمی‌دونید ضربه رو زدیم که فقط ما بتونیم چیکار کنیم؟ پرسپوی ما بفهمه، الان عالم ما بفهمه، اینو جهان اسلامیش کنه. در اون اروپایی یک از سوالش اینه Why must last birds <تصفيق> چرا اینا آتش میدن آمه ویسکو این کار انجام بشه تموم شده من به اون چیزی میخواستم رسیدم منطقه همکاری نمی ما خود رو همینجوری گماس گماس آسلاسید پیش بریم اینه عزیزان یعنی مطلب رو که حالا ما تخصصم تو این حوزه است چون هم بحث علوم استراتژی، علوم راهبردی خورده سهرم در میاریم. هم بحث نماده ها رو میفهمیم و مفاهیم رو اینجا باش ارتباط میدیم. این متوجه نیستم. انشالله سرکتون رو در بردم دوستان. انشالله سرکتون رو, رو در بردم تو جلسات وعدی وارد نمادها میشیم. از نمادها رو تک تک و دونه دونه بحث خواهم کرد. جلسه آخرم در مورد نمادهای خود اصحابه شاید. شاید سه چهار جلسه دیگه حتی بشه خیلی خوشحال شدم در خدمتون بودم چه دعایی کنم؟ بهتر از این که خدا پنجره بازه اتاقم باشد به خودم